یولای درون بیدار کن اثر از آنتونی رابینز مترجم زهرا عباسی زندگی یا یه ماجراجویی جسورانه است یا هیچی نیست هلن کلر من نامید نمیشم چون هر اشتباهی که میکنم در واقع دارم یه قدم به سمت جلو میرم توماس ادیسون در عمق وجود انسان نیروهایی هست که خوابن نیروهایی که باعث تعجب آدم میشن نیروهایی که هیچ‌وقت تو رؤیای داشتنشون رو نداریم اگه این قدرتا بیدار و مورد استفاده قرار بگیرن کل زندگی آدم را تغییر میدن رایسن سویت ماردین سلام من آنتونی رابینزم قبل از شروع میخوام چند کلمه بات حرف بزنم ازت ممنونم که این فرصت رو به من دادی تا بتونم روش و تکنیکهایی که زندگیمو خیلی بهتر کردن و درمیون در میون من برای تویی که میخوای زندگی تو تغییر بدی و عزم تو جزم کردی تا کاری از پیش ببری احترام قائلم همه ما رؤیه توی ذهنمون داریم میخواییم ته دلمون واقعا باور کنیم که یه استعداد خاص داریم و میتونیم تغییراتی توی محیط اطرافمون به وجود بیاریم. ما میتونیم دیگران رو تحت تأثیر خودمون قرار بدیم. دنیا رو یه جای بهتری کنیم. همه ما تصوری از زندگی بهتر داریم که هم می‌خوایمش و هم لیاقتشو داریم. با این حال این آرزوها واسه خیلی از ماها اونقدر وسط گرفتاریا و های زندگی روزمره گم شدن که دیگه واسه رسیدن به اونا حتی کوچک‌ترین زحمتی به خودمون نمیدیم. میدونی چرا؟ چون خیلی از این رویاها از بین رفتن و به همراهشون انگیزه ما برای سر و سامون دادن به سرنوشتمونم از بین رفته. خیلی از آدما اون حس اطمینانی که میتونه باعث تغییر توی زندگی و گم کردن. هدف اصلی من توی زندگی این بوده که اون رؤیا رو برگردونم و واقعی کنم تا هر کی خواست بتونه اون نیروی نامحدود وجودشو که توی همه ما وجود داره به یاد بیاره و ازش استفاده کنه. این برنامه بهت کمک میکنه تا به اون قوانین دست پیدا کنی و بهت قول میدم اگه بهش گوش کنی و عمل کنی با هم میتونیم به پیشرفتای بزرگی برسیم. تو قرار تو این برنامه با روش های بشی که بهت کمک میکنه زندگی رو که همیشه آرزوشو داشتی بسازی و ازش لذت ببری، روش های سریع و خاصی که بهت کمک میکنه دلیل اصلی هر کدوم از مشکلات تو پیدا کنی و با کمترین تلاش تغییرشون بدی تو یاد میگیری چطور مبانع از بین ببری و دیوارایی که مانع پیشرفتت شدن و خراب کنی قرار قدرت فوق العاده تصمیمگیری اعتقادی گروهی و به دست بیاری و روش به کارگیری اونا رو برای رسیدن به چیزی که واقعا میخوای یاد بگیری. از همین حالا شروع میکنیم. اول از همه، تو چیزی رو یاد میگیری که آنتونی رابینز به هزاران نفر آموزش داده. همون هزاران نفری که این تکنیکا رو واسه بیدار کردن حیولای درونشون به کار گرفتن. تو متوجه میشی میتونی خودتو بشناسی؟ در زمل بدن، ذهن و احساستو درک کنی، سرنوشت خودتو کنترل کنی و از همه مهمتر میتونی بفهمی چی میخوای و چه جوری باید به خواستت برسی، از همین الان شروع میکنی. من هیچ وقت روزی که واقعا به ام ثابت شد زندگی رویایی مدارم فراموش نمیکنم. با هلیکوپتر شخصیم داشتم از یه جلسه کاری تو آنجلس، باسه یک از سمیناران به کانتی میرفتم. همون که از بالای شهر گلاندل تو کالیفرنیا پرواز میکردم، یه اون متوجه یه ساختمون بزرگ شدم. هلیکوپتر رو نگه داشتم و بالای اون ساختمون معلق موندم. کار جالبیه، فقط با هلیکوپتر میشه این کار کرد، با هواپیما نمیشه میشه. همونطور که نگاه میکردم، متوجه شدم این همون ساختمونیه که من دوازده سال پیش سرائیدارش بودم. اون روزا همش دغدغم این بود که این ماشین درب و واگنم میتونه مسیر سی دقیقهای تا محل کار رو بدون دردسر طی کنه یا اینکه به دردسر مییافته همش فکر میکردم چطور میتونم دووم بیارم احساس تنهایی و ترس میکردم ولی اون روز که با هلیکوپترم تو آسمون محلق بودم فهمیدم که یه دوری 10 ساله میتونه چه تفاوت زیادی رو به وجود بیاره من اون موقع مسلما رؤیایی داشتم ولی اون زمان اینجور به نظر میرسید که هیچ وقت نمیتونم به اون روؤیام دست پیدا کنم امروز ایمان آوردم که همه شکست‌ها و ناامیدی ها و سرخوردگیام در واقع داشتن یه بستر یا آماده میکردند که در نهایت باعث شد زندگی لذت بخش حال رو داشته باشم. همونجور که و در امتداد مسیر ساحلی به سمت جنوب ادامه میدادم، دلفینا رو دیدم که اون پایین با چند تا موج سوار بازی میکردند. من و همسرم بکی دیدن این منظره خیلی خاص و یکی از موهبتای بزرگ خداوند میدونیم بلاخره به ارلن توی کالیفرنیا رسیدیم وقتی پایینو نگاه میکردم یه کمی نگران شدم چون مسیر منتهی به محل سمینار با یه ترافیک سنگین بسته شده بود با خودم فکر کردم پسر کاش هر کاری که قراره توی این شهر انجام بشه زود سر و سامون بگیره تا مردمی که میخوان بیان سمینار من سر موقع برسن داشتیم تو محل مخصوص هلیکوپتر فرود می اومدیم که با یه مشکل جدید روبرو شدیم نیروای امنیتی جلوی هزاران نفر آدمی و که میخواستن به سمینار من بیان و گرفته بودن اونجا فهمیدم قضیه از چه قراره ترافیک سنگین و آدمایی را انداخته بودن که میخواستن بیان سمینار من با اینکه ما فقط منتظر دو هزار نفر بودیم بیشتر از هفت هزار نفر اومده بودن. از طرفی سالن اجتماعات فقط گنجایش پنج هزار نفر رو داشت وقتی از هلیکوپتر به سمت جایگاه رفتم صدها نفر دورم جمع شده بودن. مردمی که میخواستن منو بغل کنن. به هم بگن که تلاشای من باعث شده تغییرات مثبتی توی زندگیشون ایجاد بشه داستانهایی که میگفتن واقعا فوق العاده بود من از این همه ابراز احساسات انقدر منقلب شده بودم که به هق افتادم حتی نمیتونستم صحبت کنم وقتی به پایین نگاه کردم پنج هزار صورت خندان و دوست داشتنی و پر انرژی رو دیدم اون لحظه فهمیدم که واقعا دارم رؤیاهامو و زندگی میکنم چیز خوبی بود پشت اون همه شک و کمبینی روش ها و مهارتهایی داشتم که میتونست واقعا به هر کدوم از این آدما کمک کنه تا خودشونو قوی کنن و تغییراتی که میخوان توی زندگیشون اعمال کنند میدونین یهیه تصویرها و خاطره های گذشته به ذهنم اومد. یاد یه تجربه افتادم که چند سال پیش اتفاق افتاده بود وقتی توی آپارتمان مجردی چلمتریم متریم تو کالیفرنیا نشسته بودم و توی تنهام گریه میکردم. یادم میاد یکی از ترانه‌های نیل دایمنو گوش میکردم که میگفت گفتم من هستم به کسایی که اونجا نبودن و هیچکس هیچ وقت نشنید حتی صندلی داد زدم من هستم من هستم و گم شدم و حتی نمیتونم بگم چرا یادم میاد حس میکردم که زندگی مثلا باسه هیچ کس ارزش نداشت انگار اتفاقای دنیا بودن که منو کنترل می‌کردن اما اون زمانی که زندگیم تغییر کرد و یادمه وقتی که بالاخره به خودم گفتم دیگه بسه و اون لحظه ای که به خودم اومدم و گفتم من خیلی بیشتر از اونی که از نظر ذهنی و احساسی و فیزیکی نشون میدم استعداد دارم همون موقع تصمیم گرفتم زندگیمو برای همیشه تغییر بدم تصمیم گرفتم توی عمل از همه نظر زندگیمو تغییر بدم تصمیم گرفتم هیچ وقت خودم و خودم رو مجبور نکنم که فقط کارای کمتر از توانم و انجام بدم کی ازم میزد که این تصمیم به این لحظه های باور نکردنی ختم بشه چطور یه بچه مثل من با تحصیلات دیپلم میتونه همچین تغییراتی رو ایجاد کنه جوابم ساده است من یاد گرفتم که اصلی که الان بهش میگم تمرکز قدرت رو تحت کنترل خودم در بیارم خیلی از آدما از قدرت بزرگی که میتونن با تمرکز روی یه قسمت از زندگیشون به دست بیارن بیخبرن تمرکزی که اگه کنترل بشه مثل اشعه لیزر میمونه و هر چیزی که به نظر شما مشکل به حساب میاد و از بین میبره وقتی ما مدام همیه تمرکزمون رو روی بهبود یه چیز بذاریم، مهارت خیلی زیادی برای بهتر کردن اون موقعیت به دست میاریم. میخوایم یه سری مسائل رو بگم که ممکنه برای کم عجیب قریب یا حتی باور نکردنی باشه. اولیش اینه که من مطمئنم تو رو دقیقاً میشناسم. من مطمئنم من و تو با هم یه نسبت فامیلی داریم. میل تو به شکوفا شدن و پیشرفته که تو رو به اینجا آورده. این به من نشون میده که تو صاحب شخصیتی هستی که بیشتر از اون چیزی که داره میخواد من میدونم که تو تو هر جایگاهی که هستی از زندگی بیشتر از چیزی که داری میخوای مهم نیست الان اوضاع چقدر خوبه یا چقدر درگیری تو اهماغ وجودت ایمان داری که تجربت از زندگی میتونه و باید بیشتر از چیزی باشه که الان هست تو محکومی به همه تجربه های عالی که لازم داری اصلا مهم نیست که تو یه آدم حرفه‌ای فوقلادهی یا یه معلم، تاجر، مادر یا پدر شد باورت نشه اما مهم اینه که تو همین الان شروع به پیشرفت کردی تو این کتاب صوتی و انتخاب کردی و داری بهش گوش میدی من می تو رو به چالش بکشم تا بری به مرحله بعد یعنی استفاده از این ها و حالا دومین مسئله اگه تو واقعا این چالش رو قبول کنی و روشو که الان در حال یادگیریش هستی و اجرا کنی حتما به افتخارت می رسی این برنامه آخرش طوری تموم میشه که بهت کمک میکنه بتونی در آینده به رویای بزرگ و عجیبت برسی آینده که میتونه تغییر مثبت زیادی توی دنیا داشته باشه و کیفیت زندگیتو توی این جریان خیلی بالا ببره آیندهی ای که توی اون تو فضای بهتری و برای خودتو خانوادت به وجود میاری ما رویاهای تو رو واقعی میکنیم اینا ادعاهای علکی و فریبنده نیست اینا اهدافی که میشه بهشون رسید بزار در مورد دغدغه بزرگ خودم بهت بگم که با سوالی ساده شروع شد چطوری میتونم خیلی فوری کنترل زندگیمو تو دستم بگیرم تو طول روز چیکار میتونم بکنم تا واقعا تغییر یا توی اطرافم به وجود بیارم که بتونه به من و بقیه کمک کنه تا سرنوشتشون و شکل بدیم چطوری میتونم پیشرفت کنم یاد بگیرم رشد کنم و این دانشمو خیلی لذت بخش با بقیه درمیون بذارم میدونی من واقعا اعتقاد داشتم که همه ما یه حیولا توی اعماق وجودمون داریم که خوابیده هر کدوم از ما یه استعداد و مهارتی داره که فقط کافیه بهش توجه بشه. سالها پیش فهمیدم که بهترین راه برای رشد و پیشرفت زندگی خودم اینه که روی چیزی سرمایه گذاری کنم که همیشگی باشه و موندگاری داشته باشه. فهمیدم که تا حدودی باید روی کاری تمرکز کنم که یه جورایی سالهای سال بعد از رفتن من بازم نتایجش باقی بمونه. امروز من این شانس بزرگو دارم تا نظراتمو، بتونم نظراتم احساساتمو، سرق کتابهام کتاب های صوتیم برنامه های تلویزیونیم با میلیون ها آدم دیگه در میون بسرم. تونستم با بیشتر از 500 نفر به صورت حضوری کار کنم. من به اعضای انجمن های کارآفرینی کنگره ها، شرکت ها و کشورها مدیرها و مادرها مدیرهای فروش حسابدارا و کلا روانشناس ها مشاور ها، بیمار های بیماری دوچار انواع فوبیا، آدمای چند شخصیتی و حتی آدمایی که شخصیتی نداشتن کمک کردم، اما حالا من یه شانس خاص و عالی پیدا کردم تا بتونم بهترین چیزایی که در طول این سالا یاد گرفتم و با تو در میون بذارم. و به خاطر این فرصت پیش اومده واقعا خوشحالم. راستشو بخوای همیشه یه نیروی توی تک تک همه آدمایی که تا حالا باشون وقت گذاشتم دیدم که میتونن با اون نیرو همه چیزایی که میخوانو به یه چشم به هم زدن تغییر بدن. من منابع مهمی که ما برگی رسیدن به آرزوهامون بهش نیاز داریم و پیدا کردم این منابع منتظر روزی که ما به حقمون برسیم من این کتاب صوتی و برای کمک به کسایی گفتم که دنبال چیزای بیشتر و زندگی بهتری هم. میخوام کمک کنم تا اون قدرت خدادادی خودشون به کار ببندن میخوام بدونی که من با احترام خیلی زیادی وارد رابطه با تو شدم ممکنه ما ارتباط حضوری با هم دیگه نداشته باشیم ولی حرفای من به تو میرسه من از این چانسی که بهم دست داده تا تو, تو این سفر کشف درون رو با من تجربه کنی واقعا خوشحالم من برای رسیدن تو به امیقترین و واقعیترین توانایی ها همراه تم. زندگی یه هدیه است و به هر کدوم از ما این فرصت رو داده این شانس رو فراهم کرده. و این مسئولیت رو روی دوشمون گذاشته تا با بهتر شدن بتونیم دنیامون رو هم بهتر کنیم بیا سفرمون رو همین الان با یه تصمیم برای دستیابی به قدرت شروع کنیم من توی اولین کتابم قدرت نامحدود خیلی واضح گفتم که قدرتمندترین نیرویی نیروی که زندگیمون رو شکل میده اینه که خودمون رو مجبور به عمل کنیم. اینکه که نتیجه یه کارای آدما با هم فرق داره به خاطر تفاوت توی انجام کارایی که در شرایط مشابه با شرایط بقیه انجام دادن. کارای متفاوت؟ نتیجه های متفاوت رو به دنبال داره چرا چون هر کاری که در جریانه بر اساس کارای کوچیک گذشته ساخته شده و ما رو توی یه مسیر مشخصی به حرکت در میاره البته هر مسیری به یه مقصد نهایی میرسه که ما اسمشو میذاریم سرنوشت پس اگه واقعا می‌خوایم به زندگیمون خط و مسیر مشخصی بدیم باید اول از همه کنترل کارهای روتین و روزمرمون رو به دست بگیریم چون کارهایی که هر از گاهی انجام میدیم تأثیر قابل توجهی در سرنوشت ما ندارن بلکه کارای اثر بزرگ توی زندگیمون دارن که همیشه اونها رو انجام میدیم مهمترین سوال ما اینه چه محرکی پشت همه کارها و فعالیت های ماست عامل کارایی که ما انجام میدیم چیه اون چیه که سرنوشت ما رو میسازه و چیه که ما رو به مقصد میرسونه منشأ همه کارهای ما چیه جواب همه این سوالا فقط یه چیزه تصمیمات هر چیزی که توی زندگیت اتفاق میفته هم اتفاقایی که خوشحالت میکنه و هم اتفاقایی که تو رو به چالش میکشه با یه تصمیم شروع شده مطمئنم دقیقا همون لحظه ای که تصمیمی میگیری هم رقم میخوره تصمیمایی که الان داری میگیری همین الان که داری به من گوش میدی تصمیمایی که روزانه میگیری نه فقط احساسات امروز تو بلکه احساس هفته ها ماه ها و سال های پیش رو تو رقم میزنه. این آدمان ها نمونه‌های بارزیان از قدرت نامحدود روح آدم. اگه تصمیم بگیریم، میتونیم زندگی خودمون رو یکی از همین نمونه‌هایی بکنیم که به بقیه انگیزه میده. حالا چطور؟ ساده است. با تصمیم‌گیری امروزتون برای اینکه چطور میخوایم سال‌هایی که از امروز پیش رومون داریم زندگی میکنیم و زندگی کنیم. کل زندگی من توی یه روز تغییر کرد. روزی که نه فقط چیزیو که توی زندگی میخواستم بشم تعیین کردم بلکه روزی که تصمیم گرفتم برای کی و چی میخوام توی زندگی متعهد باشم اگه فقط تصمیم میگرفتم که میخوام یه تفاوت توی دنیا ایجاد کنم یا اینکه میخوام زندگی بهتری برای خودم بسازم اون وقت فقط داشتم از تمایلم میگفتم و دیگه اسمش تصمیم نبود مثل اینکه بگم من دوست دارم بدون اینکه کار کنم پول بیشتری بهدست بیارم این قدرت نیست این یه دعای ضعیفه حتی بدون اینکه به اجابتش ایمان داشته باشی براش دعا کردی. برای اینکه تصمیمت واقعا توی زندگی تغییر ایجاد کنه، باید مشخص کنی که انتظار داری به چه نتیجه ای برسی. باید مشخص کنی که میخوای چه آدمی بشی. پس باید برای رفتارهای مورد قبولت یه استاندارد درست کنی. حتی اگه بازار راکت بشه. حتی اگه کسی که عاشقشی رهات کنه. هیچکس بجز خود تو اون حمایتیو که لازم داری بهت نمیده. خودت باید پای تصمیمی که میگیری بیستی، تصمیمی که باید همه زندگی تو صرفش کنی. شاید این حرف من یه سری شک و شعبه تو ذهنت ایجاد کنه. شاید داریم فکر میکنیم که چجوری میتونم تنهای این تصمیمات تو بگیرم. بر جواب این سوال باید با من همراه بشی. با هم میتونیم آینده‌ای که واقعا میخوای تعریف کنیم و بسازیم. ما با هم میتونیم کار کنیم. و به آینده ای که تو میخوای دست پیدا کنیم میخوام با هم به تعهدی برسیم که واقعا قویه و تو رو به اهدافت میرسونه میدونی چیه خیلی از مردم چیزی در مورد این تصمیمات متعهدانه نمیدونن به جای اینکه متعهد باشن دنبال بهمونه میگردن شاید بگن چون خونواده خوبی نداشتن به اهدافشون نرسیدن بهت میگن که خونواده ناسالمی داشتن اصلا به من بگین مگه داریم؟ هر خونواده یه مشکلی داره من این بهونه رو زیاد میشتم یا این بهونه که امکانات ندارن یا این که تحصیلات ندارن یا خیلی سنشون کمه، یا خیلی سنشون زیاده بذار یه چیزی و واضح بهت بگم اینها همشون شرایطن و این شرایط نیست که زندگی تو رو رقم میزنه بلکه تصمیماته که مسیر زندگی تو تعیین میکنه این تصمیمای تو که بهت کمک میکنن هرچی تو زندگیت هستی و بهتر کنی. ارتباطات تو، محیط کار تو، سلامتی تو، درآمد تو، روابط عاطفی تو یه ویژگی خیلی خوب این تصمیم اینه که تو همین الانم در اختیارش داری ولی انقدر سراغش نرفتی که فکر میکنی برای به آوردنش باید بیرون از دنیای خودت بگردی و اونو پیدا کنی قدرت تصمیم گیری چیزی نیست که فقط برای یه ادهی از آدما که امکانات یا پشتوانه، خونواده و ثروت دارن رزرو شده باشه این برای هر کسی و در هر جایی قابل دسترسه همین لحظه میتونی از این قدرت نامحدود استفاده کنی فقط باید بلند چی و شجاعت اینو داشته باشی که طلبش کنی یه آدم خیلی مغرور رو در نظر بگیرین. یه زن جوون سیاه بوست به اسم روزا پارکس که سال 1956 تو اتوبوس حاضر نشد سندلیش رو به یه مرد سفید پوست بده در حالی که کارش بر اساس قانون اون زمان جرم محسوب میشد. این یه مثال از نافرمانی مدنیه که باعث یه انقلاب شد و الگوی شد برای نسلهای بعدی روزا پارکس یه تصمیم متعهدانه گرفته بود اون خودشو به استاندارد بالای متعهد کرده بود امروز روزیه که تو هم بالاخره باید تصمیم بگیری که میخوای کی باشی امروز همون روزیه که باید تصمیم بگیری کیفیت زندگیتو بهتر کنی به آیندت نگاه کنی به خودت بگی این همون شخصی که من دوست دارم باشم این همون زندگیه که من میخوام داشته باشم و برای رسیدن به این هدف هیچی نمیتونه مو بگیره اگه تصمیم گرفتن ساده و محکمه پس برای چی مردم قبل از انجام هر کاری دنبال توصیه و مشورت می‌گردن چرا سری شروع به کار نمی‌کنن یه دلیل برای این موضوع اینه که بیشتر وقتا مردم نمی‌دونن تصمیم گیری یعنی چی ما خبر نداریم که اون تغییر و تحولی که یه تصمیم عاقلانه و متعهدانه میتونه برامون به وجود بیاره چقدر مهم و با ارزشه یه قسمت از این مشکل به اینجا برمیگرده که انقدر کلمه تصمیم گیری و برای کارهایی به کار بردیم و انجامشون ندادیم که الان فکر می‌کنیم تصمیم گیری فقط برای کارهای انجام نشدنی و رؤیه های دست نیافتنیه. ما عادت کردیم به جای تصمیم گیری فقط اون چیزهایی که دوست داریم انجام بدیم و بیان کنیم. مثلا دوست دارم سیگارو کنار بذارم. دوست دارم یه کم وزن کم کنم. تصمیم گیری واقعی به این معنیه که همه احتمالاتو کنار بذاریم. تصمیم درست به این معنیه که نسبت به یه نتیجه مشخص تعهد داشته باشی و هر احتمال دیگه یو کاملاً کنار بذاری یعنی واقعاً تصمیم بگیری که سیگار کشیدن رو کاملاً و برای همیشه کنار بذاری دیگه ماجرا تمومه، دیگه سیگار نمیکشین. دیگه هرگز سراغ سیگار کشیدن نمیرین دیگه حتی احتمالم هم نمیدین که شاید یه روزی به یه دلیلی سیگار بکشین بعد از یه تصمیم گیری واقعی بیشتر وقتا خیلی احساس راحتی میکنیم حتی مواقعی که تصمیممون خیلی سخت و بزرگ بوده چون مطمئن میشیم که بالاخره کاری که باید و انجام دادیم و بالاخره تونستیم ذهنمون رو کاملا باز و تمیز کنیم و به خاطر این که یه هدف واضح و روشن و رو مشخص کردیم احساس خیلی خوبی داریم. خب این هدف واضح تو رو قوی میکنه. تو رو به نتایجی میرسونه که واقعا تو زندگیت میخوای بهشون برسی. مطمئنم خیلی از ماها چون خیلی وقت پیش بوده که یه تصمیم جدی توی زندگیمون گرفتیم. دیگه معنی واقعی تصمیم گیری و فراموش کردیم. مثلا تصمیم میگیری میخوام ازوله هامو قوی کنم. ولی واقعا چطور میشه ازوله ها رو قوی کرد؟ باید کار کنی. باید تمرین کنی. در این صورت تصمیم های کوچیک بهتری میگیری گیری قدم های کوچیکی برمیداری تا بتونی به نتیجه نهایی برسی رسیدن به تصمیم مهم نهایی به اجرای تصمیم های کوچیک بستگی داره حتی اون تصمیمایی که در کوتاه مدت نتیجه نمیدن دوباره چیزی که ادیسون گفته براتون تکرار میکنم من هیچ وقت ناامید نمیشم چون با هر قدم اشتباه در واقع دارم به سمت جلو حرکت میکنم. متوجه میشی، هر چقدر تجربه تو تصمیم بیشتر باشه تصمیم بهتری هم سه تا نکته توی تصمیم گیری خیلی مهمن که حتما باید بهشون توجه کنیم چون سرنوشت تو میسازن و لحظه لحظه زندگیتم کنترل میکنن خیلی از ماها این تصمیم گیری ها رو خودمون انجام نمیدیم و همشو سپردیم به دست طبیعت و محیط در حالی که میتونیم کنترل این تصمیم گیری ها رو به دست بگیریم و اگه این کارو بکنیم کم کم به زندگیی که میخوایم و مسیر که دوست داریم میرسیم تصمیمای ما واقعا زندگی و سرنوشت ما رو تحت کنترل دارن اون ستا نکته مهم که گفتن اینا هستن. یک، ببین توی هر لحظه از زندگیت باید روی چی تمرکز کنی. هر لحظه از زندگیت داری در مورد یه چیزی تصمیم گیری می کنی. اما الان باید توجهت روی تصمیم گیری باشه که احساس، فکر و رفتار تو رو شکل میده. مهمترین مهمترین تصمیمو پیدا کن، فکر و توجه تو کاملا معطوف اون تصمیم بکن. دو، باید بدونی که هر چیزی برای چه معنی داره اصلا مهم نیست که اطراف چه اتفاقایی داره میفته سری مشخص کن که به نظرت هر کدوم از این اتفاقا خوبه یا بد این اتفاق حال آینده و گذشته ای تو رو تغییر میده یا نه سه، که مهمترین نکته هم هست الان باید چی کار کنم؟ این سوال رابطه مستقیمی با سرنوشتت داره و مطابق با همه مواردیه که توی زندگی باهاش روبرو این سؤالیه که توی هر شرایطی از زندگی باید از خودت بپرسی و جوابشم برای خودت مشخص کنی. میدونیم اون چیزی که توی گذشته اتفاق افتاده یا همین الان داره اتفاق میفته نیست که سرنوشت تو رقم میزنه بلکه این تصمیم توی که سرنوشت تو میسازه. این تصمیم توه که بهت میگه روی چی باید تمرکز کنی تصمیم به تو میگه اتفاقای اطرافت خوبن یا بد؟ و تو چه کارایی باید دقیق و جدی باشی این تصمیماتن که یه اتفاق و بد یا خوب میکنن مطمئن باش اگه کسی رشته و شغلی داره و خیلی موفقه به خاطر اینه که تصمیم گیریش در زمینه شغل و رشته تحصیلیش با تو فرق داشته تا یه حدی ما این تصمیما رو آگاهانه انجام نمیدیم به خاطر همینه که از این بابت داریم هزینه های زیادی توی زندگیمون میپردازیم خیلی از مردم به چیزی که من اسمشو سندروم سندرم نیاگارا گذاشتم مبتلا هستند. زندگی مثل نیاگارا یه رود بزرگه. خیلی از مردم بدون اینکه بدونن تا کجای یه رودخونه قرار پیش برن، سریع اسیر امواج میشن. پس امواج چالش این افراد و توی خط ساحلی گرفتار میکنن. چون توی این جور مواقع باید نسبت به شرایط و افکارشون آگاه باشن و نیستن. این افراد یه گروه از یه جمعیت بزرگان که ارزش‌های مشترکی دارن و به سه جهت حرکت میکنن. خب این جمعیت کوچیکم با بقیه گروه همراه میشه و بدون اینکه بدونن کجا میره با جریان اون جمعیت پیش میرن. به خاطر همینه که تصمیمات زندگیشون هیچ وقت هیچ تمرکز معناداری داری نداشته. هیچ‌وقت از خودشون نمیپرسن که این اتفاق خوبه یا بد یا در پاسخ یه شرایط خاص باید چیکار کنن و روی چی تمرکز کنن. افرادی که همه این مسئولیت‌ها رو دادن دست محیط اطرافشون تو همین حالت ناخودآگاه میمونن تا اینکه یه روزی بالاخره یه موج خلاف جهت همه موج‌های دیگه بهشون بخوره اون موقع سلولاشون تازه بیدار میشه اما دیگه دیره اینجاست که سقوط می‌کنن این سقوط میتونه یه سقوط مالی یا یه رابطه عاطفی یا سلامت باشه ولی هرچی که می‌خواد باشه اینو خوب گوش کن که هر چالشی که الان توی زندگیت باهاش درگیری اگه در گذشته تصمیم بهتر گرفته بودی ممکن بود یه جور دیگه رقم بخوره چجوری میتونیم تو لحظه حالمون رو خوب کنیم و به زندگیمون سر و سامون بدیم در حالی که درگیر موجهای مختلف روزمره شدیم وقتی که قایق زندگیمون تو پرتگاه قرار گرفته چطور میتونیم با تمرکز تصمیم گیری کنیم تو هر مسیری قدم میذاری باید یه نقشه داشته باشی تا هر لحظهشو بتونی کنترل کنیم تو یکی از کتابام گفته بودم که قدرت تصمیم گیری به ما کمک میکنه به اهدافمون برسیم. دقیقا تصمیم بگیری که میخوای سرنوشت چطور باشه و دقیقا مشخص کنی که چی میخوای. میخوای عزم تو برای چی جزم کنی. دقیقا مشخص کن روی هر کاری که تمرکز میکنی قرار چی به دست بیاری. ببین کدوم یکی از کارایی که انجام میدی کارسازه و کدوم یکی کارساز نیست و آخرش وقتی کارا اونجوری که میخوای پیش نرفت اونجوری روی کرده تو عوض کن و کاری انجام بده که نتیجه میده اینطوریه که به هدفی که میخوای میرسی من اسم این چهار مرحله رو فرمول معادله نهایی موفقیت گذاشتم ای که هم یه پاسخ و هم یه تعریف از موفقیت. چون اگه با تصمیمای متعهدانه اینها رو دنبال کنی به هر چیزی که میخوای میرسی و در این حال تعریف دقیقی هم از موفقیت ارائه میده هر کسی میتونه به موفقیت برسه. اگه این چهار مرحله رو اجرا کنی، موفقیتت از همین الان تضمین شده است. این تضمین میتونه به نتایج بزرگی توی زندگی اطرافیانت هم ختم بشه. مثل یه شرکت که با تصمیم و ایده یه نفر شروع میشه. کسی که تصمیم گرفته و مصمم رفته و بعد به نتایج بزرگی برای خودش و بقیه یه افراد رسیده. آقای هوندا سال 1938 وقتی هنوز یه بچه مدرسه ای بود، هرچی داشت و جمع کرد و همشو توی کارگاه کوچیک سرمایه گذاری کرد تا بتونه رینگ پیستون خاصی که توی ذهنش بود و بسازه. میخواست این محصول به شرکت تویوتا بفروشه. از صبح تا شب کار میکرد و همیشه دست بالش روغنی و کسیف بود. تنها چیزی که داشت امید بود. وقتی بالاخره رینگ پیستون رو آماده کرد و اونو برگی شرکت تویوتا فرستاد بهش گفتن که با استانداردهای شرکت تویوتا همخونی نداره بعد از دو سال کار و تلاش به جای رسیده بود که همکارا و شاگرده و همسایههاش بهش میخندیدن اونو مسخره میکردند ولی اون به جای اینکه فعالیتش رها کنه تصمیم گرفت تا هر جوری که شده به نتیجه واقعی که خودش میخواست برسه بعد از دو سال شرکت تویوتا قرار داد که آقای هوندا مدتها تویه رؤیاهاش بود و باش بست علاقه و انگیزه زیاد آقای هوندا بالاخره نتیجه داده بود میدونست که چی میخواد و برای رسیدن به اون شروع به کار کرد تشخیص میداد که چه کاری جواب نمیده و چه چیزی کارسازه و مدام در حال تغییر و بهبود عملکردش بود تا در نهایت به چیزی که میخواست رسید اما بعد از اون ماجرا مشکل جدیدی توی زندگی هوندا به وجود اومد دولت ژاپن درگیر جنگ جهانی دوم شد و دیگه بهش مجوز راه اندازی کارخونه خودش به نظرت دست از تلاش کردن برداشت معلومه که نه فکر میکنی روی این مسئله تمرکز کرد که چقدر این کار دولت بیانصافیه؟ معلومه که نه آیا به خودش می گفت پس یعنی رؤیاهام از بین رفتن مسلما نه هوندا به این مسئله به چشم تجربه نگاه کرد و رفت دنبال یه استراتژی جدید هوندا و تیمش یه ریختند که میتونست با اون کارخونه خودش رو راهاندازی کنه و به اهدافش برسه توی جنگ جهانی دوم این کارخونه دوبار بار بمبارون شد و قسمت های زیادی از امکانات کارخونه از بین رفت. هوندا کارمندش رو جمع کرد تا بشکه‌های گازوئیل که سربازای آمریکایی رها کرده بودند و جمع‌آوری کنند. اسم این بشکه ها رو گذاشته بود هدیه‌های کوچک از طرف رئیس جمهور ترومن. چون که مواد این گوتیا اون زمان توی ژاپن کمیاب شده بود و میتونست ماده اولیه ساخت و ساز کارخونه هوندا رو تأمین کنه. در نهایت بعد از چند سال زلزله کارخونه را از بین برد. اون موقع بود که هوندا سهام خودش رو به شرکت تویوتا فروخت. هوندا مردی بود که تصمیمای خیلی بزرگی برگرد رسیدن به موفقیت می گرفت اون برای کاری که میخواست انجام بده هم انگیزه داشت و هم ایمان. یه استراتژی خیلی عالی رو به کار گرفت. خیلی تلاش کرد. همش سعی کرد رویکرد خودش رو تغییر بده. اما به نتیجه‌ای که میخواست و متعهد بود که بهش برسه نرسید. با این حال تصمیم گرفت مقاومت کنه و به کارش ادامه بده. بعد از جنگ، تو ژاپن قحطی گازوئیل شد. اون دو حتی نمی‌تونست ماشینشو روشن کنه تا بتونه برای خانواده‌اش غذا تهیه کنه. آخرش با کلی ناامیدی یه موتور کوچیک به دوچرخش نصب کرد. دوستا و ها وقتی اون دوچرخه موتوریو دیدن، ازش خواستن که اگه میشه یکم برای اونا درست کنه. یکی یکی همه ازش درخواست میکردند تا جایی که همه موتوراش تموم شد تصمیم گرفت که تیکه زمین رو به تولید موتورهای اختراع جدیدش اختصاص بده اما متاسفانه برای این کار پول نداشت مثل همیشه تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده یه راهی پیدا کنه راه حلش این بود که به هجده هزار دوچرخ فروشی توی ژاپن نامه بنویسه توی نامه توضیح داد که دو چرخ فروشی ها چجوری میتونن با پتانسیل بالای اختراع جدید هوندا روی تغییر و بهتر شدن زندگی مردم ژاپن نقش داشته باشند پنج هزار نفر از اونا قبول کردن تا اون سرمایه که هوندا بهش نیاز داشت و در اختیارش قرار بدن ولی فقط تعداد کمی از اونا دو چرخهٔ موتوری سری اول و خریدن چون هم خیلی بزرگ بود هم خیلی سنگین پس یه اصلاح دیگه رو طرحش انجام داد یه موتور گازی خیلی سبکتر و کوچیکتر درست کرد و اسمشو گذاشت سوپرکاپ تا یه شب به موفقیت رسید. هوندا با این ترفند تو یه شب سرمایه یه پادشاه رو به دست برد و تصمیم گرفت تا موتور گازیشو به اروپا و ایالات متحده صادر کنه. این اتفاق با دهه هفتاد که ماشینا خیلی معروف شده بودن همزمان شد. امروزه شرکت هوندا بیشتر از 100 هزار نفر رو تو آمریکا و ژاپن مشغول به کار کرده و به عنوان یکی از بزرگترین کارخونه‌های ماشینسازی توی ژاپن مطرحه. هوندا بعد از تویوتا از نظر فروش توی رده دوم قرار میگیره و توی آمریکا هم به یکی از شرکت‌های خیلی موفق تبدیل شده چون پشت اون مردی ایست داده که رمز و قدرت تصمیم‌گیری متعهدانه رو فهمیده. هوندا میدونست که وقتی تصمیمی گرفته میشه باید عملیش کرد فرقی نداره تو چه شرایطی قرار گرفته فقط باید تصمیمی رو عملی کنه که نتایج بلند مدت و همیشگی براش داشته باشه اجازه بده شش نکته کلیدی برای رسیدن به قدرت تصمیم گیری رو بهت بگم قدرتی که میتونه تجربت رو از هر لحظه زندگی شکل بده یک قدرت واقعی تصمیم گیری درک کن چه هر لحظه از زندگیت از قدرت تصمیم گیری استفاده کن تا زندگیتو تغییر بدی وقتی که یه تصمیم جدی میگیری در واقع داری یه کار جدیدو به جریان میندازی. تاثیر سرنوشت، سازی که منتظرشی دقیقا لحظه اتفاق میافته که یه تصمیم جدید میگیری و شروع میکنی به تغییر زندگی یادت باشه وقتایی که احساس فشار خیلی زیادی میکنی یا اینکه احساس میکنی هیچ راه انتخابی نداری یا اگه احساس میکنی هرچی اتفاق بد فقط داره سر تو میاد باور کن که میتونی جلوی همه این اتفاقا و شرایط بدو بگیری اگه فقط یه لحظه صبر کنی و تصمیم بگیری وقت میتونی همه این شرایط تغییر بدی فقط اگه یه لحظه به شرایط فکر کنی و خوب و بد هر اتفاق رو به درستی تشخیص بدی بعد بر اساس آگاهیت از افکار و اطرافت روی کاری که الان لازم انجام بدی متمرکز میشی و تصمیم میگیری که میخوای این کار رو انجام بدی یادت باشه که این رفتار و کارهای جدیده که تصمیم واقعی تو رو میسازه اگه تصمیمت با عمل همراه نباشه اصلاً تصمیمی نگرفتی دو، یادت باشه سخت ترین مرحله برای رسیدن به هر هدفی اینه که یه تصمیم واقعی و درست بگیری یادت باشه تصمیم های تو باید حوشمندانه باشن و خیلی هم سریع خیلی زمان و تلاش و هزینه صرف این نکن که چجوری قرار تصمیم تو عملی کنی یا به چه وسیله و از چه طریقی میخوای تصمیم تو انجام بدی فقط به این فکر کن که اصلا باید این کارو انجام بدی یا نه مطالعات نشون میده که موفق ترین آدما ها تصمیم هاشون رو سریع میگیرن چون ارزش تصمیم ها برای اونها خیلی مشخصه این افراد تصمیم هاشون رو با احتیاط تغییر میدن از طرف دیگه آدمایی که بیشتر وقتا با شکست رو میشن تصمیماتشون رو آهسته و توی یه زمان طولانی میگیرن و نظرشون زود به زود عوض میشه از این شاخه به اون شاخه میپرن فقط تصمیم بگیر به این توجه کن که تصمیم گیری در واقع خودش یه نوع عمل و تلاشه تلاش کن وقتی تلاش پشت اون تصمیم باشه اون موقع از که متوجه میشی واقعا داری با این کار یه حرکت اساسی توی زندگیت انجام میدی. بیشتر وقتا تصمیم گیری کمک میکنه تا به یه هدف بزرگتر برسی. یه قانون خیلی مهم که من برای خودم گذاشتم اینه که هیچ وقت قبل از اینکه کاری در راستای تصمیمم انجام ندادم رهاش نکنم. به محض اینکه یه تصمیم و گرفتم شروع میکنم به تلاش تا اونو اجرا کنم. سه زیاد تصمیم بگیر باید اونقدر تصمیم بگیری تا بتونی توی تصمیم گیری حرفه ای بشی. هرچقدر بیشتر از این ماهیچه استفاده بشه قویتر میشن ماهیچه های تصمیم گیری دقیقا همینطورین همین الان قدرت تو آزاد کن و تصمیمایی بگیر که همیشه اونها رو عقب مینداختی انرژی و هیجانی که این کار توی زندگیت به وجود میاره باور نکردنیه چهار از تصمیماتت یاد بگیر و تجربه کن هیچ چیزی کاملا مشخص نیست بعضی وقت ممکنه کاملا گند بزنی گاهی آقایت مهم نیست چقدر تلاش میکنی همیشه ممکن اتفاقای ناخواسته کار خراب کنن و تو به هدف نهایی تصمیمت نرسی به جای اینکه که بشین گریه زاری کنی و خودتو سرزنش کنی از خودت بپرس الان این چه فایده ای برات داره من از اتفاقایی که افتاده چی میتونم یاد بگیرم؟ این چه کس در واقع میتونه براتون یه هدیه یه باور نکردنی باشه؟ میتونی ازش استفاده کنی و در آینده تصمیمات بهتری بگیری. به جای اینکه روی اتفاقای تلخ کوتاه مدت تمرکز کنی، تصمیم بگیر از این اتفاقات درس بگیری. درس رو حفظ کن و در آینده از اونا استفاده کن تا بعدها بتونی هزینه‌های زمانی، مالی و یا حتی روحی رو کم کنی و بدونی. این برای سالهای آگنده تو یه قدرت بزرگه پنج، نسبت به تصمیماتت متعهد بمون اما توی روی کردت انعتاف بزیر باش مثلا همین که تصمیم گرفتی به عنوان یه شخص میخوای چجور آدمی باشی دیگه خیلی روی ابزارها و راه های رسیدن بهش تمرکز نکن تمرکزت فقط روی هدفی باشه که انتخاب کردی بیشتر وقتا آدمها برای دسترسی به هدفشون شکست میخورن چون راهی که توی اون لحظه میتونن انتخاب کنن و میکنن، نخششو میکشن و هم مشخص میکنن ولی راه های جدید و جاده های جدید رو در نظر نمیگیرن. خیلی روی روی کرد و روش خودت متعصب نباش. هنر انعطاف پذیر بودن رو یاد بگیر. شش از تصمیم گیری لذت ببر. باید بدونی که توی هر لحظه از زندگی تصمیمی که میگیری میتونه کل مسیر زندگیتو برای همیشه تغییر بده ممکنه دقیقا فردی که پشت سرت یا کنار تو هواپیما نشسته یا تماس بعدی که میگیری یا ممکنه بات گرفته بشه یا فیلم بعدی که میبینی یا کتاب بعدی که میخونی یا حتی همین کتاب صوتی که داری بهش گوش میدی همون ای باشه که راهها و دروازههای زیادی و برات باز میکنه و با میشه همه اون چیزی که همیشه منتظرش بودی توی مسیرت قرار بگیره اگه واقعا میخوای زندگیت پر از انرژیو انگیزه باشه باید با این دیدگاه زندگی کنی جرمی بنتام میگه طبیعت آدم و زیر سلطه و مدیریت دوتا استاد قوی گذاشته درد و لذت این دوتا مفهوم همه کارهایی که انجام میدیم و همه چیزهایی که میگیم و همه یه که می‌کنیم و مدیریت می‌کنن بیشتر تصمیمایی که می‌گیریم دقیقاً بر اساس همین دو مفهومه رمز موفقیت اینه که به جای اینکه اجازه بدیم این دوتا از ما سوء استفاده کنن یاد بگیریم چجوری از درد و لذت سود ببریم اگه این کار رو انجام بدی کنترل زندگیت میاد توی دست خودت اگه نه این زندگیه که تو رو کنترل می‌کنه زندگی بشر تصادفی نیست هر کاری که انجام می‌دیم یه دلیلی داره ممکنه دلیل اصلی رو ندونیم و اونو رو انجام بدیم ولی همیشه یه عاملی هست که پشت همه رفتارهای رفتانهای انسانه توضیحش هم ساده است هر کاری که انجام میدیم تصادفی نیست یا بر اساس نیازمونه تا یه وقت گرفتار درد و رنج نشیم یا دنبال اینیم که چیزی به دست بیاریم که باعث شادی و لذتمون بشه این دو قدرت دو قلو یعنی قدرت درد و لذت در طول زندگیت هر کاری که خداگاه یا ناخداگاه انجام داده باشی و کنترل می این نیروی دوغلو تصمیم های تو رو در مورد اینکه چی می کجا میری، می به کجا برسی، زندگی تو چطور اداره می کنی، با چه چیزی در ارتباطی، این کندوم متناسبی داری یا نه و چیزهای دیگر رو مشخص می البته قدرت اینم داره که تو رو به یه مسیری در جهت زندگی ایدئالت هدایت کنه. به یه مثال بزنم تا حالا کار خود تو عقب انداختی معلومه که آره اصلا عقب انداختن کار یعنی چی این حالت که یه اتفاق میافته وقتی که میدونی باید کاریو انجام بدی ولی انجامش نمیدی چرا همچین کاریو میکنی؟ ساده است چون چونسط خیلی سخته که بخوای تو مسیری که داری میری به سختی بیفتی و زحمت بکشی به عقب انداختن کار یعنی این که بخوای کاریو انجام بدی بعد بیخیالش بهشی و کنار یعنی از اون زحمت و دردی که ممکنه به خاطر حرکت کردن توی اون مسیر برات اتفاق بیفته میترسی میخوای فرار کنی شاید اونقدر کار خودت رو عقب انداختی که دیگه مجبور شدی تو همون لحظه دست از تنبلی و به عقب انداختن کارت برداری اون لحظه چه اتفاقی افتاده ساده است تو هر چیزی که به درد و رنج ختم میشد و کنار گذاشتی تا جایی که یه دفعه به این نتیجه رسیدی که انجام دادنش خیلی راحتتره تو بخوای بزنی زیر کار برای همین الان یهو تصمیم میگیری که اگه یه کاری بکنم دردیم نیست. مهمتر از اون تو تو این لحظه به این نتیجه میرسی که خوب اگه قرار باشه همچنان کاری نکنم درد روی درد میاد و در آینده اوزام خرابتر میشه. در واقع ما تا یه جایی میتونیم درد رو تحمل کنیم. بعد یه دفعه تصمیم میگیریم که باید همه رو تغییر بدیم. مشکل اینجاست که خیلی از ماها به جای برنامههای بلند مدت دنبال اینیم که باید چیکار کنیم تا توی مدت کوتاه از شر دردمون خلاص بشیم. همش دنبال لذت کوتاه مدتیم که در کوتاه مدت هم به دست میاد. این دیدگاه خیلی اشتباهه. چرا؟ به خاطر اینکه برای رسیدن به موفقیت باید برنامه داشته باشیم. چون برای به آوردن چیزایی که برامون خیلی مهم و با ارزشن، باید لذتهای کوتاه مدتمون کنار بذاریم. این واقعا مهمه. مخصوصا، وقتی، این مسئله‌ای که گفتم و کنار این واقعیت در نظر بگیریم که این خود درد نیست که ما رو مجبور میکنه یه کاری برای تغییر اوضاع انجام بدیم بلکه ترسمون از اینه که آخرش این درد میخواد ما رو به کجا بکشونه این ترسه که ما رو وادار به عمل میکنه همینطور میشه گفت این هدف نیست که بهمون به انرژی میده در واقع حس رسیدن به نقطهایه که میتونیم احساسات روحیمون رو تخلیه کنیم و احساس لذت عمیق داشته باشیم در واقع ما با واقعیت‌های اطرافمون و اتفاقای زندگیمون انگیزه نمی‌گیریم بلکه با درکی که از اون واقعیت و اون اتفاق داریم به یه سمتی حرکت می‌کنیم که نتیجه‌ای که می‌خوایم و برامون به وجود بیاره توجه کن که ترس از درد نقابای زیادی داره ممکنه به شکل ترس از شکست ترس از موفقیت ترس از چیزایی که نمیشناسی یا نمیفهمی ترس از اینکه مردم قضاوتت کنن و هزار نوع ترس دیگه باشه ولی اصلا مهم نیست اسمشو چی بخوای بذاری؟ همیشه میتونی رفتار خودتو بررسی کنی و ببینی چه کاری باید انجام بدی و چیو باید تغییر بدی ؟ اگه توی هر جنبه یا از زندگیت نمیتونی دست به کار بشی مطمئن باش که یه دلیل بیشتر نداره اونم اینه که داری به خودت میگی اگه کاری نکنم دردش کمتره. از وقت یه راه برای تغییر این وضعیت هست. دیدگاهتو نسبت به درد و لذت تغییر بده وگرنه کماکان تصمیمات پوچ کوتاه مدت میگیری که اصلا دائمی نیستن. مثلا میتونی یه رژیم غذایی شروع کنی. خیلی هم تحت فشار و روی قاعده و اصول ولی وقتی که خوردن غذاهای رژیمی و یه کار سخت و مشکل بدونی هیچ وقت نمیتونی وزن کم کنی و همیشه اضافه وزن داری باید طرز فکرتو از درون تغییر بدی اراده کافی نیست یه اصطلاح دیگه در موردش به کار میبرم اسمشو گذاشتم ارتباطات عصبی یعنی اون قاعده و سیستمی که لذت و درد و توی وجود ما به هم ربط میده تا مشخص کنیم که میخوایم چی کار کنیم خبر خوب اینه که ما میتونیم یاد بگیریم که چجوری ذهن و بدن و احساسات خودمونو در رابطه بین دو مفهوم درد و لذت و اهدافی که داریم اهدافی پیوند بزنیم. این همون راز تغییر زندگیت، رفتارت، همه حرکاتت و کارهاته و نتیجهی که به دست میاری. با تغییر رفتارهایی که به لذت و درد میدیم، میتونیم کاملا رفتارمون رو عوض کنیم. یه مثال بزنم که چجوری خودم این کار انجام دادم. برخلاف زحمتهایی که پدر و مادرم میکشیدن، یه وقتهایی بود که خانوادم بیپول بودن. وقتی که من بزرگ شدم و درآمدم بیشتر شد شروع به خوردن غذاهای جور و جور کردم، درگیر پرخوری شدم، مخصوصا غذاهایی رو میخوردم که همیشه میخواستم، اما نمیتونستم بخرم. آخرش به جایی رسیدم که نتونستم تو غذا خوردن به تعادل برسم و خیلی اضافه وزن پیدا کرده بودم، 19 کیلو. تازگیا فهمیدم که توی ذهنم نخوردن رو به درد رفت داده بودم. اساس دوران کودکیم نتیجه گرفته بودم که اگه نخورم درد میکشم پس باید در جهت مخالف شرکت کنم تا از درد دور بشم آخرش فهمیدم این که میگن غذا باید کم و سالم باشه برای من درد و تدایی میکنه بنابراین باید غذای رژیمی و سالم و به لذت و برعکس پرخوری و به درد رفت بدم یاد گرفتم کنار گذاشتن ظرف غذا وقتی که هنوز غذا توش هست و رفت بدم به لذت این حالت کاملا مخالف حالت قبلی من بود. وقتی که به موسیقی مورد علاقم گوش میدادم سعی میکردم غذای اضافی نخورم. به جا شروع کردم به دور کردن ظرف غذا از خودم. اینطوری لذت گوش دادن به موسیقی با کنار گذاشتن غذا همراه میشد و ذهنم شرطی میشد. وضعیت بدنی خودم رو چک میکردم. تغییراتم رو میدیدم و اونقدر به هم لذت میداد که انگیزه بیشتری برای پس زدن غذا پیدا کردم. اونقدر اینو تکرار کردم که خیلی زود کنار زدن ظرف قضا برام لذت شده بود و حس خیلی خوبی بهم به میداد نمیتونی تصور کنی که این تجربه چقدر حس آزادی و رهایی بخشی بهم به میداد اولین قدم برای ایجاد تغییر چیه اولین قدم اینه که به تأثیر خیلی قوی رابطه عصبی بین درد و لذت پی ببریم که هم روی تصمیم گیری ها ایده ها تصاویر صداها و احساسات ما اثر میذارن باید این رابطه ها رو درک کنیم ولی تا وقتی که یک کنترل آگاهانه و اتوماتیک روی این روابطا پیدا نکنیم تاثیر خودشونو باقی میذارن و راه خودشونو میرن مغزتون همش درگیر احساساتتون میشه و این روابط روابطو دنبال میکنه و این شبکه پیچیده از روابط درونی بین ایده ها، تصاویر، صداها، اتفاقات، احساسات، خاطرات و حافظه تو از چیزایی که پیش در باعث درد یا لذتت شدن هر وقت که یه مقدار زیادی از لذت و درد و تجربه میکنی حالا چه احساسی چه فیزیکی فوراً مغز دنبال علت اون درد و لذت می گرده و وقتی دلیل این اتفاقا رو پیدا میکنه نتیجه رو توی سیستم عصبی ثبت میکنه تا بعدها مجبور نباشی دوباره این درد و تجربه کنی این تجربه ثبت شده تبدیل میشه به یه علامت خطر که توی همه شرایط مشابه بهت هشدار میده که ممکنه درد قبلی برات تکرار بشه و مثل دفعه قبل عذیت بشی این حالت یه وقتاییم هم تو رو از درد و رنج به سمت لذت میکشونه تا کار خیلی سریع انجام بدی. یعنی علت لذت رو پیدا میکنه و تو سیستم عصبیید ثبتش میکنه. بعد در مواقع مشابه بهت میگه قرار لذت مشابهی رو تجربه کنی بنابراین انگیزه میگیری و سری پیش میری. این اساسی ترین قریزه بشره که همیشه هم مشغوله و دست از کار نمیکشه ولی مشکل وقتی به وجود میاد که متوجه این رابطه ها نباشیم یا؟ اشتباهاتشونو بگیریم. یه بچه رو در نظر بگیر که داره به سمت لبه‌ی مبل سینه‌خیز میره. ممکن این بچه از مبل پرت بشه و اصلا هم ارتباط بین افتادن و درد و متوجه نشه. واسه همین این کارو چند بار دیگه هم تکرار میکنه چون اون رابطه رو نفهمیده. بعضی وقتا آدمای بزرگ هم دوچارا همچین مشکلی میشن. یه زمانی زنی و میشناختم که یه هنرمند موفق بود، دوازده سال با یه نفر نامزد بود. بعد از این همه سال رابطه به هم خورده بود. این زن تا قبل از این که رابطش به هم بخوره هر کاری انجام میداد. خیلی حساس بود و دوست داشت که جلوی خراب شدن رابطش رو بگیره. برای حفظ رابطشم هر کاری کرده بود اما در نهایت وقتی جدا شد ضربه بزرگی خورد و مدت ها عذاب میکشید. سیستم عصبی این زن در دورجی که داشت متحمل میشد و به رابطه عاطفی نسبت داده بود و به همین دلیل تصمیم گرفته بود که دیگه هیچ وقت با کسی وارد رابطه احساسی نشه این یه درک اشتباه از علت و معلوله این زن اشتباه تشخیص داده بود دلیل این قطع رابطه این بود که ارزشای اون و نامزدش از بیخ و بن با هم دیگه فرق داشت این زن کلا درگیر احساسش شده بود و متوجه نبود که علت دردش خود رابطه عاطفی نبوده بلکه عدم تفاهمی بوده که با شخص مقابلش داشته این یه مثال خیلی خوبه اگه علت درد یا لذت و اشتباه تشخیص بدید، توی دردسر سر میفتید و مدام تصمیماتی میگیرید که هیچ ارتباطی با ای که میخواید ندارن. اینطوری میشه که کنترل ما به شکل منفی به دست تصمیمات غلط میفته. مثلا قراره برای اولین بار توی یه جمع سخنرانی کنیم. همه چی خوب پیش میره تا اینکه یه لحظه به ذهنت میرسه که این، اولین باره و تا حالا جایی سخنرانی نکردم بنابراین نمیتونم از پسش بر بیام اون موقع است که این کنترل منفی وارد عمل میشه چون عدم موفقیت و نتیجه نداشتن تجربی قبلی میدونیم برای همینه که باید همه رابطهایی که راجع به های مختلف توی ذهنمون ساختیم دقیقتر نگاه کنیم و ببینیم درستن یا ما داریم اشتباه میکنیم چون برداشت اشتباه ما تبدیل میشه به تصمیم‌گیری‌های اشتباه خیلی وقتاست که چون دلایل و اشتباه شناسایی کردیم، در نتیجه با راه های اشتباه هم روبرو میشیم که تعدادشون زیادم هست. باید دلیل درست هر نتیجه رو پیدا کنیم تا فکرها و راه حل‌های اضافی رو از ذهنمون پاک کنیم تا در نهایت به یه راه حل درست برسیم. با این حال، رابطه های عصبی بین درد و لذت توی ذهن ما باعث ترسی میشه که حاصل میلیون سال تکامل سیستم بشره، عصبی بشاره. مغز، با تولید یه مجموعه سیگنال سیگنالا تعیین میکنه که به چی باید نزدیک بشه و از چی باید دور بشه. این جور نیست که کنترلمون کاملا دست محیطی باشه که توشیم یا بر اساس این محیط شرطی شده باشیم و به خاطر پاداش و مجازات محیط تصمیم گیری کنیم. من قبول ندارم که بعضی از آدما میگن که من به عنوان یه انسان محصول محیطی هم که توش بزرگ شدم. معما پیچیده یه درسته. خیلی سخته که جلوی شرطی شدن ذهنمون رو بگیریم. یکی از تصمیمایی که خودم توی زندگیم گرفتم و سرنوشتم و تغییر داد این بود که رابطه فوقلاده و باورنکردنی بین مطالعه و لذت به وجود بیارم من متوجه شدم اگه یاد بگیرم به رفتار و احساساتم شکل بدم و تحت کنترل خودم بگیرمشون میتونم زندگیمو از اساس تغییر بدم با این کار میتونم رمز و راز کنش ها و واکنشها و دلیل هر نتیجه ای رو پیدا کنم. متوجه شدم چطور میتونم واقعیت زندگی خودم رو شکل بدم و اولویت های خودم رو تشخیص دادم. متوجه شدم از ارتباط با دیگران و راهنماییشون لذت میبرم. برای اعتیاد به مواد یا الکل یا مشکلات رابطه ای که با دیگران داشتی، این مشکل هر چیزی که میخواد باشه میتونیم به طور مستقیم و برای همیشه درستشون کنیم و اونها رو تغییر بدیم اگه نتونستی توی مسیر قرار بگیری که زندگیتو تغییر بده اگه درد زیادی و برای شروع کارات در نظر گرفتی باید بتونیم کنترل اینو به دست بگیریم باید سیستم رابطه یا عصبی مورد نظر خودمون رو ایجاد کنیم شروع کار تو، با ببدست آوردن اطلاعات در مورد زمانی که این ارتباطات شکل می گیرن و اینکه بتونی توی این لحظه ها تمرکز خودتو حفظ کنی مثلا تصور کن که بعد از یه روز سخت کاری داری میری خونه وقتی میرسی همسرت به پیشوازت میاد بعدی سعی میکنه که حال تو بیاره سر جاش ولی جواب نمیده چرا به خاطر اتفاقی که سر کار افتاده خیلی عصبانی هستی از سر دود بلند میشه سرتو تو بلند نمیکنی که حتی صورت همسر تو ببینی خیلی زود اونم صورتش مثل تو میشه خشمگین و عصبانی و ناراضی چرا چون تو یه عالمه از اتفاقای سرکار تو به خونه آوردی و لحظاتی که میتونست خوب باشه رو به دست کنترل منفی دادی و آخرشم اوقات تلخی و برای خود تو خونهوادت به وجود آوردی تو تصورشم نمیکردی که ممکنه حالت خوب بشه تازه توقع بدتر شدن اوضا داشتی این توی سیستم عصبی و تصمیم گیرید قرار می گیره. باید شروع کنی به پیدا کردن ارتباطات اشتباهی که توی ذهنت شکل گرفته و اونو ببری زیر سوال و باید متوجه باشی که این موارد قابل بحثه. ما باید همیشه در حال بازبینی ارتباطات عصبی ذهنمون باشیم باید همش اونها رو زیر سوال ببریم تا جایی که دیگه خموچم کار دستمون بیاد و بتونیم ارتباطات سالمی بسازیم این اولین و مهمترین قدرت آگاهیه. همینطور توجه داشته باش که اگه بخوای از ایجاد ارتباط برای کوتاه مدت استفاده کنی، سهمت های کوتاه مدت میشه. باید عامل اصلی رو تغییر بدیم و این به این معنیه که چه چیزی میخوای؟ آگاه شدن به ارتباط درد و لذت این قدرت رو میده که بتونی آداب و رفتار زندگی تو توی دراز مدت کاملا تغییر بدی و با تغییر تمرکز خیلی سری کنترل به دست بگیریم. اگه الان از اینکه دست به کار بشی میترسی شروع کن به بررسی اینکه انجام این کار چه احتمالاتی توی آینده میتونه برات به وجود بیاره باید عامل اصلی و تغییر بدی و این یعنی اینکه بعد از آگاه شدن به ارتباط درد و لذت چی و میخوای تغییر بدی این بهت قدرتی میده که بتونی آداب و رفتار زندگی و توی دراز مدت کاملا تغییر بدی بررسی کنو و ببین که انجام این کار میتونه چه احتمالاتی توی آینده واسط به وجود بیاره و این هر چیزی که با تصمیماتت ارتباط دادی و تغییر میده. آدمای زیادن که به خاطر ترسی که احتمال میدن از قدم گذاشتن توی یه مسیری بهشون وارد بشه، اصلا وارد عمل نمیشن. باید به جای این کار روی این مطلب تمرکز کنی که اگه وارد عمل نشم چی میشه؟ اگه همین الان دست به کار بشم چه لذتایی میتونه شامل حالم بشه؟ به نظر من باوری که به یه واقعیت تبدیل میشه، اونیه که منو واسه استفاده بهتر از قدرت آماده میکنه. بهترین وسیله که باعث بشه خاصیت من به عمل تبدیل بشه این انرژی ذهن ماست که ما رو نسبت به بیماری یا ثروت قمگین یا ناراحت می‌کنه پس ما چیزی هستیم که فکر می‌کنیم هر چیزی که هستیم با تفکرات ما به وجود میاد ما دنیای خودمون رو با تفکراتمون می‌سازیم اعتقادات ما چیزایی هن که تفاوت بین یه عمر لذت بردن از مشارکت توی زندگی خصوصی و هر چیزی که باعث بدبختی و ویرانی رو به وجود میارن. اعتقادات چیزایی که مادر ترزا رو از چارلز منسون متفاوت میکنن این اعتقادات هن که آدمای معمولی رو به قهرمان تبدیل میکنن در حالی که ما زندگی پر از بدبختی و کندی و میگذرونیم متوجهیم که قدرت اعتقاد و باور بی و مرزه اعتقادات ما به معنای واقعی کلمه یا میتونن باعث خلق چیزی بشن یا چیزی از بین ببرن. اعتقادات فقط وابسته به احساسات یا اعمال ما نیستن، میتونن واقعا بدن ما رو توی چند لحظه تغییر بدن. اخیرا این افتخار رو داشتم که مصاحبه‌ای داشته باشم با دکتر برزیگر از اساتید دانشگاه یل که نویسنده کتاب پرفروش عشق، دارو و معجزه است. وقتی که در مورد قدرت اعتقاد صحبت می‌کردیم، اون کتاب توضیح دادم که برزگیر در مورد افرادی که دچار های چند شخصیتی بودند تحقیقاتی داشته به طرز باور نکردنی حجم اعتقاد این آدما به اینکه شخصیتشون یهو تغییر میکنه زیاد شده بود به طوری که یه دستور 100 درصد باورپذیر به سیستم عصبی این آدمها صادر میشه که تغییرات قابل مشاهده و منحصر به فردی و روی سیستم بدنی و زیستی اونا ایجاد میکنه بدن اونا جلوی چشمای محقق تغییر کرده و تو همون لحظه قابل مشاهده بوده مثلا علامت که روی بدنشون بوده از بین می رفته یا دوباره ظاهر می شده. حتی بیماریایی مثل مرض قند یا فشار خون بالا به نسبت اعتقاد بیمار در مورد شخصیتی که داشته ظاهر می شده و تغییر می کرده. اعتقاد چیه؟ چیزی که خیلی قویه اینه که با یقین کامل و محکم معنی یه مفهوم تو باور ما شکل بگیره. این احساسیه که از طریق چیزی که بهش میگیم ارجاعات در ما به وجود میاد و تجربه های زندگی باعث میشه که این باور بمونه و رشد کنه. فکرای ما وقتی به اعتقاد و باور تبدیل میشه که زیرش چندتا تا پای کرده باشیم و ساختارش ساختارشو کاملا قوی کنیم. اون موقع است که پشتیبانی میشن و مثل مجسمه میشن و میتونی بهش احساس یقین داشته باشی، باور داشته باشی که مثلا جذابی این باور با اتفاقهایی که توی زندگی افتاده پشتیبانی میشه همسرت بهت میگه معشوقه، عالی، خوشتیپ هر روز ورزش میکنی تو بهترین حالت نگهش میداری، ماشین با کلاس سوار میشی البته تا زمانی که بتونین برای پشتیبانی از یه باور دلیل پیدا کنین میتونین این اعتقاد رو قوی کنین و اونو زنده نگه دارین. مثلا اگه خودتون رو به عنوان یه بازنده ببینین به با عنوان کسی که شانس یا ارتباطات یا اراده یا آدم های موفق و نداره این اعتقاد حرکات ما رو کنترل میکنه و به احتمال زیاد باعث میشه همون شکل زندگی که توی ذهنمون داریم به وجود بیاد. به قابلیت های خودت اعتقاد و ایمان داشته باش. قابلیت هایی که میتونی یاد بگیری و این حالات احتمالا توی مسیرهای زندگیت، راه‌هایی رو به وجود میاره که واقعاً بی حد و بی مرز و بی نهایته. باید یادمون باشه همه های چشمگیر ما با تغییر در اعتقاداتمون به وجود میان چه میتونیم اعتقادات و باورهای خودمون رو تغییر بدیم؟ موثرترین روش اینه که از قانون درد و لذت مطلع باشی توجه کن که مغز ما مقدار زیادی از درد و رنج و باورهای گذشته رو به هم ربط داده و من بهت قول میدم با این کار خیلی زود شاهد تغییرای بزرگی توی زندگیت میشیم. البته باید به این باور برسی که نه فقط اعتقادات گذشته باعث به وجود اومدن درد و رنج توی گذشته تو شدن بلکه باعث درد و رنج تو زمان حالتم هم هستن و آخرش هم میتونن همه چیزهایی که واسه آیندت در نظر گرفتی و ازت بگیرن. مرحله بعدی اینه که یه حجم زیادی از لذت و به یه باور جدید و مناسب رفت بدی. گزینه قویه دیگه اینه که شک و به عنوان یه عنصر جدا اینا پذیر بیاریم ببین. واقعا با خودت رو راست باش. قبلا یه سری باورها و اعتقادات داشتی که با همه وجودت ازشون دفاع می کردی اما امروز دیگه خجالت می کشی که بگی همچین باورایی داشتی. واسه این باورا چه اتفاقاتی افتاده؟ چی باعث شده بهشون شک کنی؟ شاید یه تجربه جدید داشتی. شاید اتفاقی افتاده که کاملا با باورای گذشتت فرق می می‌کرده. شاید با آدمایی روبرو شدی که قبلا یه تصور کاملا متضاد باشون با داشتی. ولی این آشنایی باعث شده که باورای گذشته تغییر کنه و به این نتیجه رسیدی که اگه سخت نگیری. و بذاری که از لحظه لذت ببری میتونی به راحتی و خیلی واضح شرایط اطراف خودتو بررسی کنی ذهن شروع به بررسی مجدد میکنه یا باورای قبلی و زیر سوال میبره کلید اصلی برای شکستن باورای محدود که توی گذشته داشتی اینه که به حد کافی همه چیو زیر سوال ببری و بررسی کنی شروع کن به شک کردن. یه روش فوقالعاده موفق برای از بین بردن باورا همینه مثلا تا حالا همچین کاری به خودت کردی تا حالا موضوعی بوده که خودت به شک کرده باشی وقتی که این سوال از خودت میپرسی شروع میکنی به شک کردن به خودت به خودت میدی چی باید بخورم چی باید گوش بدم چی باید بخونم از این قدرت به خوبی برای از بین بردن شکها و ضعفها و باورهای محدود کننده خودت استفاده کن. و وقتی باورهای غلط رو از بین ببری، نمونه های جدیدی برای ساختن باورهای جدید، باورهای که بهت قدرت میدن به دست میاری. اگه به اندازه کافی باورهای جدید ایجاد کنی، از باورهای قبلی هم قوی میشن و متقاعدت میکنن. وقتی به یه موضوع اعتقاد پیدا میکنی، به باوری میرسی که با دلایل بیشتری پشتیبانی میشه. این قدرتیه که نمیتونه در برابر تغییر مقاومت کنه. مثلا تصمیم گرفتی که دیگه گوشت نخوری برای اینکه خودت خودتو قانه کنی با کسی که گیاه خاره صحبت میکنی و میپرسی چه دلاغلی باعث شده که اونا شیوه غذا خوردنشون خوردنشونو تغییر بدن و اصلا توی زندگیشون سلامتی منفعتی داشته یا نه؟ شروع میکنی به مطالعه تاثیرات فیزیولوژیکی که پروتئین حیوانی روی بدن ما میذاره. هرچقدر دلایل بیشتری به دست بیاری مخصوصا اگه این دلایل احساسی باشن بیشتر متقاعد میشی و آخرش به مسیری که انتخاب کردی مطمئن میشی. اینجوری کاملا توجیه شدی که این بهترین راه برای توه و بقیه راهها خطرناکن اتفاقایی که خیلی لحظه‌ای و تأثیر گذارن و میتونن باعث بشن به یقین برسی و پیدا کن یکی از اتفاقایی که خودت دوست داری همون جوری که توضیح دادم بساز مثلا اینکه هیچ وقت نباید مواد مخدر مصرف کنی خب میتونی به مراکز بازپروری معتاد بری به بیمارستانهایی برو که بیماری تنفسی و آدمای سیگاری برای نفس کشیدن به دستگاه اکسیژن احتیاج دارند. به عکسی نگاه کن که از شوشهای سیاه رنگ یا آدم سیگاری گرفته شده، این نوع تجربه ها این قدرت رو دارن که تو رو به ای برسونن که واقعا برای کاری که میخوای انجام بدی متقاعد و مطمئن بشی و بالاخرهش بش عمل کنی. هر کاری که توی این مسیر انجام بدی اعتقاد تو رو قوی تر میکنه و شدت احساساتت و در نتیجه سرعت عمل تو رو بالا میبره. همین امروز شروع کن و رو نتایجی که اعتقادات و باورای شما دارن فکر کن. این کار بیشتر از هر چیز دیگه ای زندگی منو تغییر داده. این کارایی که انجام میدی تو رو به نقطه ای که مد نظر علاقت میرسونه. بشین و یه لیستی از کارهایی که تو رو عقب نگه داشتن و باعث شدن به هدف نرسی و از طرفی یه لیستی که باعث شدن به هدفات برسی و موفق بشی تهیه کن. همین الان گوش دادن به این و متوقف کن و برو این کار انجام بده. همین الان یه کاغذ بردار و حرفای خود باوری که بهت قدرت میدن و بنویس. همه رو بنویس. خیلی وقتا کتابی رو می خونیم یا گوش میدیم ولی اصلا نمیفهمیم چی داریم می خونیم و چی داریم می و هیچ استفاده هم ازش نمی کنیم. خواهش می همین الان برو و این کارو انجام بده. همین الان گوش دادن به این فایلو قطع کن. دور سه مورد از قوی ترین باورایی که بهت انرژی زیادی میدن دایره بکش و از خود چند تا سوال بپرس. این باور چجوری میتونه یه قدرت واقعی به من ببخشه؟ چجوری میتونه زندگی منو محکم تر کنه؟ وقتی این کارو کردی با اینکه قبلا هم از این قدرت ها آگاه بودی بهت قول میدم که بیشتر از قبل ازشون استفاده می‌کنی. حالا دور دوتا از محدود کننده ترین عادت که داری دایره بکش. اونایی که بیشتر از بقیه تو رو عقب نگه داشتن و نذاشتن به هدفت برسی. باورای خودتو بررسی کن و این آسیب که تا حالا به خاطر این اعتقادات بهتون رسیده رو احساس کنی و یه بار واسه همیشه تصمیم بگیری که دیگه نمیخوای تحت سلطه این باشی دیگه نمیخوای باهایی پرداخت کنی تصمیم بگیر که پایههای این باورای کشندت و ریشه کن کنی و از بین ببری. شاید به خودت بگی این خیلی مسخره است. در واقع با پیدا کردن جواب و با شبیه سازی این حرکت میتونی نتایج گسترده‌ای به دست بیاری. به این فکر کن که اگه این باور رو رها نکنم چه مشکلات روحی روانی برام به وجود میاد؟ چه برای سر ارتباطاتم با دیگران میاد؟ از لحاظ فیزیکی و مالی چه مشکلاتی برام به وجود میاد؟ اگه این باورا و اعتقادات رو رها نکنم چه بلایی سر خونواده و کسایی که دوستشون دارم میاد؟ خودتو سر و سامون بده اما همین الان، عوض شدن رو از همین امروز شروع کن. وقتی شروع می به ارتباط دهی اعتقادات و باورهای قدیمی تر روی جنبه های مختلف جوابات تمرکز کن. باورهای گذشته و محدود رو به اون دردای شدیدی ارتباط بده که میخوای برای همیشه کنارشون بذاری مرحله بعد اینه که نتایجی که دوست داری توی زندگیت بهشون برسی و در نظر بگیر پیشنهاد میکنم از خودت بپرسی برای موفقیت توی این وضعیت نیاز داری به چه چیزی باور و اعتقاد داشته باشی یا اینکه چه کسی چه اعتقادی به تو داشته باشه باید ببینی برای رسیدن به موفقیت چه باورهایی رو باید توی ذهنت داشته باشی با پرسیدن این سوال از خودت میتونی حتی باورهای دینی که در تمام مدت توی گذشته تو رو گمراه میکردن و تغییر بدی و اونها رو بشناسی اگه احساس میکنی زندگی تو رو به چالش کشیده خسته شدی و عصبانی هستی وقتی به موفقیت میرسی باید از خودت بپرسی برای اینکه تو این حالتی که هستم بمونم باید چه باوراییو حفظ کنم باید به چه چیزایی فکر کنم ببین وقتی این پروسه اتفاق میفته، میتونیم باورهایی که ما رو محدود کردن و کاملا بشناسیم. مثلا اگه احساس افسردگی میکنی از خودت بپرس به چه چیزایی باید اعتقاد داشته باشم تا افسرده بمونم؟ میتونی برای این سوال به این جوابا برسی؟ مثلا احتمالاً به آینده اشاره داره. من اعتقاد دارم هیچ وقت شریعتم بهتر نمیشه یا هیچ امیدی نیست؟ وقتی این باورها رو از زبون خودت میشنوی ممکنه با خودت فکر کنی من هیچ اعتقادی ندارم چون الان حالم خوب نیست دارم این حرفها رو میزنم در هر صورت شرطه که همیشه اینجوری نمیمونه تو همیشه با این کار مواجه میشی که اعتقاد به مسائل مخرب نه فقط الان تو رو که آینده تو رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده و خراب کرده و میکنه برای همین شروع کن توی همین لحظه دست از این باورها و اعتقادای اشتباه بردار تا بتونی آینده روشن و موفقیت آمیزی داشته باشی اعتقادات پتانسیل باور نکردنی در تو ایجاد می‌کنند. باورهای تو می چنان قدرتی بهت بدن که بتونی تغییرات عالی و باور نکردنی توی زندگی خودت ایجاد کنی و همینطور می امیدهای تو برای آینده از بین ببرن من اعتقاد دارم که تو داری این حرف رو گوش میکنی چون دیگه نمیخوایی به کمتر از نهایت و بهترین حالت خودت رضایت بدی تو میدونی که میتونی بیشتر و بهتر باشی میدونی اعتقادات پتانسیل باور نکردنی در خلق یا نابودی مسائل دارن فقط کافیه باورهایی رو انتخاب کنی که بهت قدرت میدن اینطوری موقعیتهای رو برای خودت به وجود میاری که بهترین مسیر رو در رسیدن به اهدافت برای تو رقم میزنن اینطوری میتونی به حد اکثر و بهترین توانایی‌های خودت برسی هیچ دلیلی نداره که کمتر از اون چیزی که هستی و بخوای مارک تواین میگه هیچ چیزی نیست که با تمرین نشه انجامش داد هیچی دور از دسترس نیست تمرین میتونه اخلاقای بدو تبدیل کنه به اخلاقای خوب میتونه قانونهای بدو از بین ببره میتونه قوانین خوب و جایگزین کنه میتونه آدم به مراتب بالاتر برسونه یه سوال دارم به چند تا روانشناس واسه عوض کردن یه لامپ احتیاج داری جوابش ساده است یه نفر خیلی هزینش بالا میشه و اون لامپ خیلی دوست داره که به دست یه روانشناس عوض بشه <تصفيق> البته این یه جوک بود هر چند به افسانه توی زندگی ما اشاره داره که میگه تغییر زمان زیادی میبره و پر از چالش وحشتناکه و میتونه همه ی جنبه های احساسی، مالی و فیزیکی ما رو تحت و شعا قرار بده میخوام بهت بگم که حرف من این معنی میده حرف من اینه که تو میتونی هر چیزی از زندگی و با یه روش درست خیلی فوری و توی یه لحظه تغییر بدی من میخوام این روش رو همین الان توضیح بدم اما اول میخوام راجع به یه موضوع مهم تر صحبت کنم همه ی این تغییراتی که توی زندگی داشتی در واقع توی یه لحظه اتفاق افتادند این درسته که پشت سرش یه زمانی طی شده تا بفهمی که به یه تغییر توی زندگی نیاز داری تا بتونی کاری که توی زهنت رو عملی کنی. اما من عملی که در مورد شرطی سازی یه تجمع عصبی دارم و در اختیارت میذارم که به طور خلاصه بهش میگم نک. نک یه روند مرحله به مرحله است. تو با استفاده از اون میتونی سیستم عصبی خودت رو برای ارتباط دادن یه قسمت بزرگی از لذت به چیزایی که میخوای شرطی کنی. اینطوری میشه که هر کاریو میتونی برای رسیدن به هدفت انجام بدی. همینطور میتونه بهت نشون بده که چجوری درد و به چیزایی که نیاز داری ربط بدی. واسه رسیدن به موفقیت توی همه مراحل زندگیت از اونا دوری کن و ذهنتو اینجوری شرطی کن. همینطور با استفاده همیشگی از انرژی و توانی که توی بدنت داری رفتارات و ناخودآگاه کن. چون استفاده مدام باعث میشه رفتار تثبیت بشه و در نتیجه وارد ذهن ناخود میشه و میری روی کنترل اتوماتیک چون تو برای رسیدن به موفقیت به طور غریضی شرطی شدی. یادت باشه تو سیستم عصبی ما داریم سعی میکنیم احساسات خودمون رو شرطی کنیم همونطور که گفتم سیستم عصبی ما احساسها عمل کرد و رفتار اصلی ما رو مشخص میکنه. اما اگه کنترل سیستم اعصابمون رو به دست بگیریم کنترل زندگی هم دستمونه با سیستم نک میتونی سیستم احساب خودتو شرطی کنی تا بتونی دست به عمل بزنی و قوی بشی و به طور موفقیت آمیزی به موفقیت برسی تو میتونی این رفتار رو در مورد اتفاقای تلخ به کار ببری فقط کافی اعتماد به نفس داشته باشی حتما میدونی کسی که سیگار میکشه یا معتاده یه سری رفتارها و عادتهایی داره که باید تغییر کنن. تنها راهی که بر شکلگیری این مسئله وجود داره. اینه که عادت قدیمی خودشو پیدا کنه. تغییر رابطه های لذت جدید نسبت به گذشته به نظر خیلی ساده میاد. ولی من توی این زمینه متوجه چیزی شدم که برای تغییر موندگار و همیشگی ایجاد میکنه. رازش اینه که ما به یه سیستم خاص و ویژه برای انجام دادن این کارا نیاز داریم تا بتونیم برای همیشه این ارتباط ضروری و مهم رو ایجاد کنیم. در نتیجه یه تغییر همیشگی به وجود بیاریم. من هر روز این تکنیک و مهارت‌های جدید و از علوم مختلف کشف میکنم. اینو بدون که این تکنیک ها زیادن و محدود به یکی دوتا نمیشن ولی همیشه به جایگاه اصلی و برمیگردن که علم تعریف بر و طوری تر شده که بشه توی هر تکنولوژی ازش استفاده کرد. هر چیزی که تا حالا یاد گرفتیم و میتونیم توی این سیستم به کار ببریم. پس یه ترکیب خاص از مراحلیه که از هر چیزی که یاد گرفتی استفاده میکنه تا تغییر طولانی مدت و معصری در زندگیت به وجود بیاره. به نظر من دو نوع باور وجود داره که باید اونو توی خودمون به وجود بیاریم. اولین باوری که برای ایجاد تغییرات سریع باید توی خودمون داشته باشیم اینه که ما در لحظه میتونیم تغییر کنیم البته تو این مورد صحبتها و آموزشهایی هست که به ما میگه تغییر سریع ممکنه یعنی اینکه تو اصلا برای انجام این تغییرات با هیچ مشکلی مواجه نمیشی در واقع باید بدونی که این خود تغییر نیست که زمان بره یادت باشه که آماده شدن برای تغییره که زمان بره خود تغییر توی یه لحظه اتفاق مییفته این دقیقا به من و تو مربوط میشه که بخوایم خودمونو برای تغییر آماده کنیم و ما توانایی اینو داریم که این تغییر تغییرو سریع انجام بدیم اصلا نیازی نیست صبر کنیم دومین باور درست اینه که اگه من و تو یه تغییر درست و حسابی و همیشگی ایجاد کنیم باید قبول کنیم که فقط خودمونیم که در قبال تغییرات خودمون مسئولیم نه هیچ کس دیگه باید خودمون عامل تغییرات بدونیم اگه این کار انجام ندیم همیشه دنبال یه نفر دیگه میگردیم که بیاد و تغییرات رو برای ما بیاره و اینجوری همیشه وقتی به نتیجه نمیرسیم دلمون میخواد یکی دیگر رو سرزنش کنیم. حالا با در نظر گرفتن این دو تا باور من میخوام شش قدم بزرگ و اصلی برای تغییر رو به تو معرفی کنم. این پایه های اساسی به تو نشون میدن که چه جوری با درد و رنج به تغییری برسی که به هیچ نیروی بیرونی نیاز نداشته باشی. من تو رو به این چالش دعوت میکنم که همین الان چیزی که میخوای توی زندگی تغییر بدی و انتخاب کنی. اینجوری میتونی همزمان با پا گذاشتن تو این مسیر وارد عمل بشی و تأثیرش رو توی زندگیت ببینی به خودت بگو اگه توی زندگیم تغییر کنم همین الان میتونستم چه جوری زندگی کنم چه چیزایی به دست می آوردم؟ خونواده و دوستام چه احساسی نسبت به من داشتن همین الان باید دنبال تغییر باشیم نه از اولین روز هفته با فکر کردن و دلیل ساختن این قدرت کشش رو به دست میاریم که همین الان برای تغییر حرکت کنیم حواست باشه این دلایل به هیچ وجه نمیتونن آینده تو رو توجیه کنن که حرکت و پیشرفت داشته باشی امیدوارم همین الان که داری این صحبت ها رو گوش میکنی یه لیست از تغییراتی که میخای درست کنی توی هر مرحله گوش دادن رو متوقف کن و تصمیم بگیر که چی رو میخوای تغییر بدی اینکه واقعا از زندگیت چی میخوای. اصلا تونستی بفهمی که چی در تو جلوی ایجاد تغییر رو میگرفته اصلا به اندازه کافی از تغییر و دردناک بودنش میدونی؟ اصلا توجیه شدی که باید تغییر کنی و این تغییر به حد کافی برات لذت بخشه؟ اگه بله پس مرحله بعدی رو انجام بده چون درد و لذت مورد نیازت رو توی سیستم عصبی ایجاد کردیم و ارجاعش دادیم به تغییرات مورد نیازت الگوی محدود رو متوقف کن راستشو بخوای برای اینکه بهترین نتایج جدیدو توی زندگیت به دست بیاری، اینکه فقط بدونی چی میخوای کافی نیست. برای خودت باید اهرمای تغییر ایجاد کنی. ما میتونیم شدیداً برای تغییر انگیزه داشته باشیم، ولی اگه بخوایم همون کاری مشابه گذشته رو و همون منوال نامناسب و تضعیف کننده توی زندگیمون تکرار کنیم، نه تنها توی زندگیمون تغییری ایجاد نمیکنه تازه چه درد و خستگی بیشتری هم برامون داشته باشه. یکی از کارهایی که واسه شکستن الگوی زندگی خودت یا دیگران باید انجام بدی اینی که از خودت توقع تغییر داشته باشی، نه از دیگران تو باید کارایی انجام بدی که به شدت با تجربه های قبلی خودت و دیگران متفاوته مثلا، وقتی یه نفر برای جلسه درمان و خصوصی میاد پیش من معمولا اینطوریه که میاد دفترم میشینه روبروم و شروع میکنه به حرف زدن راجع به مشکلات و مسائلش. بعد از کلی گریه وزاری کنترلش از دست میده اینجاست که من یه دفعه بلند میشم و داد میزنم میگم ببخشید که ما هنوز شروع نکردیم به خاطر همین رفتارم معمولا سریع ناراحتیشو رو قطع میکنه و کنترل خودش رو به دست میاره این یعنی توی همون لحظه میفهمه که چه جوری باید احساسات خودش رو تغییر بده باید دقیقا به راههایی فکر کنی که از طریق اونها میتونی اشتباهاتتو متوقف کنی. نیازه که کار متفاوتی انجام بدی کارای عجیب یا حرفای عجیبی که بتونه الگو تو از هم بپاشونه برای قطع الگوهای مخرب زندگی چه کارایی باید انجام بدیم؟ خیلی از آدما معتقدند معتقدن الگوهایی که در گذشته برات خسته کننده و زیادی یا اضافی بودن عامل این قضیه است تا حالا خاستی بشکنشون به آسمون نگاه کن و احساساتی که توی ذهن و حافظت داری و تجربه هایی که اونها رو پشت سرگذاشتی و تجسم کن. چجوری میتونی این همیشگی بودن تجربه رو طوری تغییر بدی که توقف نکنه بزار یه آزمایشی انجام بدیم. شرایطی رو در نظر بگیر که مثلا رئیست خیلی اذیتت میکرده. فکر کن یه فیلم سینمایی بوده نسبت بهش احساس بدی نداشته باش دوباره این فیلم رو نگاه کن ببین چه اتفاقایی افتاده؟ بعد فیلم و تبدیل کن به انیمیشن با لبخند روی یه صندلی بشین؟ و تصاویر رو برعکس تماشا کن. همه چی به عقب برگرده. نگاه کن که با عقب رفتن فیلم چه جوری رئیست داره داره کلماتو بیمانی ادا کنه و چه حالت خندهداری پیدا کرده. بعد دوباره انیمیشن رو با سرعت ببر جلو اندازه تصاویر رو تغییر بده. تصور کن اگه همه چی رنگی باشه چه کارتون مسخره‌ای میشه. اینو حداقل دوازده بار تکرار کن و همه یه تصاویر ذهنتو تغییر بده. بعد یه کار جدید انجام بده. یه موسیقی مسخره بذار. صحنه های یه فیلمو در نظر بگیر که با سرعت رد میشه و این موسیقی بدم زده میشه. انجام این پروژه میتونه خیلی از کارهای تو رو تحت تاثیر قرار بده تا جایی که ذهنت حسای منفی و ضعیفش رو از بین ببره. توی این حالت اصلا ممکنه وقتی دوباره به اون وضعیت فکر میکنی دیگه اون حالت منفی رو تجربه نکنی. دقیقا مثل این میمونه که یه سی برداری و تا میتونی با یه چیز تیز بیوفتی به جونش. واسه از بین بردن فکرای منفی و افزردگیهایی که حتی چندین سال طول کشیده، این کار خیلی خوب جواب میده. همین الان اونو امتحان کن. تأثیرش رو توی جواب گرفتن با فکر به تصاویر بد و تلخ گذشته که توی ذهنت بوده تغییر بده. با این کار آمادگی جدیدی رو به دست میاری که برای وارد شدن به قدم بعدی آمادت میکنه به دست بردن قدرت تغییر طولانی مدت برای پیدا کردن جایگزین خیلی مهم و حیاتیه. در واقع به کار بردن الگوی قبلی غیر ممکنه این چهار قدم خیلی مهم و حیاتی در واقع دلیل شکست کسی که فقط میخواد یه راه حل جایگزین به جای مسیر قبلیش پیدا کنه، تا فقط واسه مدت از درد و رنج در بیاد و سری به لذت برسه اینه که به تغییرات بلند مدت, مدت نظرش نمیرسه. یادت باشه همه ارتباطات های عصبی طوری طراحی شدن که وقتی سیگار کشیدن رو ترک میکنی به لذت برسی باید روش های جدید آرامش روان و کنترل استرس و پشتیبانی از هر حالتی که قبلا با کشیدن سیگار سعی میکردی بهشون برسی و پیدا کنی و جایگزین سیگار کشیدنشون کنی در واقع از بین بردن استرس تو روابط و طرحهای پیش یه ذهنت برای رسیدن به هدف که زندگی کمک بزرگی میکنه با آدمایی که قبلا درگیر مشکل تو بودن فکر کن فرقی نداره مواد مخدر باشه یا مشروبات الکلی یا افسردگی یا هر موضوع ناراحت کننده دیگهی توی گذشته آدمایی که تونستن به مشکلاتشون غلبه کنن و پیدا کن این قدم اوله باید قدم بعدی رو درک کنی که همون همیشگی کردن شرطی سازی یعنی مطمئن باشی که تغییراتت پایدار و بلند مدتن بهترین راه برای پایدار کردن شرطی سازی اینه که مدام تمرین داشته باشی یه نکته خیلی مهم اینه که فقط برای اولین بار و یه بار این کارو به طور سنتی انجام نده و برای تکرارش زمان بندی داشته باش برای موفقیت چه کاری میتونی انجام بدی که مثلا یه ماه و یه سال بگذره و بازم نخوای سمت سیگار بری اینجوری نباشه که منتظر باشی یه روز سیگار بکشی و سری به خودت جایزه بدی تا وقتی که این حالت دائمی بشه صبر کن مثالای دیگه میتونه این باشه که تا حتما سی کیلو وزن کم نکنی به خودت جایزه ندی از طرفی هم صبر نکن تا یه بار سی کیلو وزن کم کنی واسه یک کیلو اقدام کن تو همون لحظه که ظرف غذا رو برای اولین بار گذاشتی کنار به خودت یه جایزه بده کاری کن که به خاطر کنار گذاشتن غذا و این عادت جدید یه حس خوب به دست بده کلید اصلی توی این مرحله اینه که یه سری از هدف‌های کوتاه مدت و خاص و مشخص کنی تا به هر کدومشون که رسیدی سریع به خودت جایزه بدی معطل نکن این جایزه ها رو خیلی یه به خودت بده. این خیلی مهمه که احساس لذت رو به الگویی که میخوای وصل کنی تا بتونی با قدرت بیشتری ادامه بدی. حواست باشه که نمیخوای یه ارتباط عقلانی به وجود بیاری. تو باید یه ارتباط احساسی ایجاد کنی و این روی موضوعی کار میکنه که تو میخوای برای ذهنت و توی پایین ترین سطح ممکن یه سری ارتباطات جدید تعریف کنی. بین سیستم عصبیت با این تغییر جدید یه لذت منحصر به فردی ایجاد کن وقتی از این مراحل گذشتی یه الگوی جدید به وجود آوردی مرحله آخر اینه که مطمئن بشی الگوی جدید و آزمایش می‌کنی اونقدر بررسی کن تا به عادت تبدیل بشه و تأثیر بذاره باید از خودت بپرسی آیا تو ارتباطات کاری من جواب میده یا یعنی اینکه تأثیر منفی داره روز زندگی خصوصیم چه تأثیری داره تغییر عادت‌های گذشته هر چقدر مخرب باشن قدرت رسیدن به نتیجه‌های مورد نظر رو دارند. قدرت برآورده کردن نیازها فقط به خاطر کسایی که براشون ارزش قائلی حالا این الگوی جدید تو رو به همون اهداف اصلی زندگیت میرسونه خب حالا این راهو یه جوری قوی‌تر و موثرتر طی میکنیم. برخلاف گریه و زاری و افسردگی که توی الگوی زندگی داشتیم مطمئن باش این شرطی سازی های جدید دقیقاً طبق باورای اصلی و ارزش‌های زندگیت دارن پیش میرن. مطمئن باش دقیقاً در راستای چیزی هن که در مورد خودت باورداری. اینا روش های ساده تا مطمئن بشی که اهدافت درست سر جای خودشون قرار گرفتن و با هماهنگی و منحصر به فرد مشغول کارن. من یه آزمایش دارم به اسم تست آکادمیک اینطوریه که به عادتهای قمگین فکر می و می بینم که غیر قابل قبولن و مطمئن میشم که این الگوهای جدید درستن از خودت بپرس پرس الگوهای جدیدی که به وجود اومدن آیا واقعا احساس خوبی به هم می من به عنوان یه انسان از فواید نگه داشتن یه قسمتی از الگوهای قبلی خودم مطمئنم. و از خودت بپرس آیا این ترکیب جدید با قدیمیه همراهه که منو به احساسات جدیدی برسونه؟ مطمئن شد که تغییرات بلند مدت و شرطی سازی تأثیر داشتن. نتایجی که از انجام الگوهای قبلی داشتی و تصور کن، از احساساتی که داری مطمئن شد، که میخای از الگوهای جدید به جای قبلی ها استفاده کنی اگه مطمئن شدی که میخوای از الگوهای جدید استفاده کنی از چک کردن کیفیت اون تغییراتی که با موفقیت انجام شده قفل نشو الان یه سری تکنیک یاد گرفتی مثلا اینکه چه تصمیماتی گرفتی که زندگیتو شکل داده و کنترل ساختن باوراتو به دست خودت برگردونده مشخص کن که به چی باید باور داشته باشی و چطوری باید عمل کنی که بالاخره تغییر واقعی موندگار رو در خودت ایجاد کن. ویکتور هوگو میگه هیچی شکل نمیگیره مگه اینکه اول یه رؤیا بوده باشه. هر جایی که هستیم و هر چی که هستیم به خاطر اینه که اول اونو تصویر تصویرسازی کردیم. هیچی مثل یه رؤیا نمیتونه آینده رو بسازه. آینده امروز در واقع حقایق فرداست. دوست داری یکم خوش بگذرونیم؟ میخوای مثل بچگیات به حالتی برسی که تخیلت به همه جا پرواز کنه؟ میخوای زندگیتو توی دستت بگیری و همه ی قدرت تو، عشق و انرژی که میدونی مال خودت رو از توی دلش در بیاری خیلی هستن که توی زندگیشون میدونن که باید چیکار کار کنن ولی انجامش نمیدن دلیلش اینه که هیچ انگیزه و محرکی ندارن که اونا رو به جلو ببره عاملی که میتونه آینده رو براشون روشن کنه واضح به تصویر بکشه و مجبورشون کنه که به حرکت در بیان. تو الان این فرصت رو داری که ذهن تو آزاد کنی و اجازه بدی رؤیاهات به بالاترین سطح خودشون برسن تا بتونی به یه فکر جدید برای رسوندن زندگی به مرحله بعدی برسی از خودت بپرس الان چه کاری از دستم برمیاد الان میخوام یه انرژی لحظه ای و فوری برات ایجاد کنم و به ای برسونمت که با همه وجودت بخوای به طور مستمر و همیشه برای رسیدن به هدف تلاش کنی بیشتر مردم معتقدند مشکلاتشون اینه که هدف خاصی توی زندگیشون ندارن این نشون میده درکشون از عمل کرده هدف اشتباهه ذهن انسان همیشه دنبال یه چیزی میگرده همیشه دنبال چیزایی که باعث میشن درد از بین بره یا تقریبا کمتر بشه یا یه ارتباطی بین مسائل مختلف مربوط به درد و رنج ایجاد میکنه و ما رو به سمت اهدافمون هدایت میکنه همون جوری که قبلا گفتم مشکل اینه که ما وقتی میخوایم از منابعمون استفاده کنیم کاملا بیاختیاریم بیشتر آدما ریزی شدن برای پرداخت قبض هایی که فقط روزشون بگذره، فقط برای زنده موندن، یه نون بخور و نمیر داشته باشن، قسطاشون رو پرداخت کنن، ارتباطاتشون رو یه خورده بهتر کنن، کار بهتری گیرشون بیاد. خیلی خلاصه بگم، آدما توی کسب درآمد برای گذروندن زندگی گرفتار شدن، نه اینکه بخوان زندگیشون رو ترویج کنن. یادت باشه که اهداف ما هرچی که باشن روی ما تاثیر میذارن. اگه بخوایم تو وجود خودمون به ها و های دور برسیم باید یه هدف داشته باشیم اونقدر بزرگ و بااهمت که ما رو برای رد شدن از خودمون به چالش بکشه تا بتونیم ظرفیت اصلی خودمون رو کشف کنیم یادت باشه که وضعیت الانت نشون دهنده حد اکثر ظرفیت تو نیست بلکه نشون دهنده اندازه و کیفیت اهدافته پس میشه همین چیزی که الان روش تمرکز داریم رو به عمل برسونیم ما باید یه هدف منحصر به فرد رو توی خودمون ایجاد کنیم یا اینکه اونو بسازیم. ممکنه با خودت فکر کنی که این حرفا انگیزه میده اما فقط یه انتخاب به معنی تبدیل شدن به واقعیت نیست، میدونی؟ من موافقم با اینکه برای رسیدن به همه اهدافی که انتخاب میکنی باید خیلی سریع و بعد از تعیین هدف طرح و برنامه ریزی داشته باشی و با همه توانت تلاش کنی. تو همین الانم برای وارد شدن به هدفت و برای عمل کردن قدرتی که مورد نیازه رو داری اگه تو الان نتونستی این قدرت رو به حرکت در بیاری اینه که تو انتخاب هدفی که بتونه بهت انگیزه و شوق بده شکست خوردی. چی تا حالا تو رو عقب نگه داشته واقعا یه لیست از اهداف خیلی مشخص و نتایج مورد نظری که میخوای از نظر روحی روانی، جسمی و مالی داشته باشی و مشخص کن اگه این کارو نکردی چی تا به حال جلو تو گرفته؟ چیزی که جریه‌ی انجام این رو توی بعضی از مردم میگیره ترس ناخودآگاهشون از شکست و ناامیدیه برای تام هم همینجوری بوده خیلی از آدما هستن که قبلا یه رو انتخاب کردن و تو رسیدن بهش موفق نبودن برگه همین دیگه هدفی برای خودشون در نظر نمیگیرن چون میخوان از درد دوری کنن بیشتر آدما خیلی زود از هدفشون دست برمی‌دارن چون اون نتیجه مثبتیو که همون اولوی تلاششون میخواستن اون نگرفتن یکی از مهارتهای همیشگی و ثابتی که بین های ورزشی دیدم، یعنی آدمایی که به بالاترین نقطه مورد علاقه خودشون میرسن، قدرت باورنکردنی مقاومت و پافشاریشونه. اونا مسیرای رسیدن به هدفشون رو بارها تغییر دادن، ولی هیچ وقت هدف اصلی و نهایی خودشون رها نکردن. کاری که الان من انجام بدیم اینه که اولین قدم خودمونو برای تبدیل شدن از هیچ به همه چیز برداریم. یعنی رؤیای خودمون رو به واقعیت تبدیل کنیم. تا آخر این کتاب صوتی تو خیلی دقیق و زیبا میتونی برنامه و آینده واضح و روشن خودتو به دست بیاری. این ورزشکارو اصلا نمیتونن جلوی خودشونو برای ورداشتن اولین قدم بگیرن. ما در مورد چهار مرحله صحبت میکنیم. یک، اهداف توسعی فردی. دو، اهداف روشن و واضح در مورد کار و درآمد سه، اهدافی که در مورد ماجراجوی های شخصی که اسم رو نوشتم و چهار اهداف مربوط به کمک کردن به بقیه حالا که این سه مرحله رو در مورد توسعه فردی گفتیم بریم سراغ مرحله بعدی یعنی اهداف کاری شغلی و مالی یک کاغذ جدید بردارید و حداقل پنج دقیقه پشت سر هم بدون وقفه هر چی که میخوایین توی این زمینه به دست بیارین و بنویسین دوست دارین توی یه سال چقدر درآمد داشته باشین دلتون میخواد برای کل زندگیتون یا حتی تا آخر عمرتون چه سرمایهی رو جمع کرده باشین؟ چه هدف های کاری مهمی می دارین؟ دوست دارین توی چه زمینه های سرمایه گذاری کنین؟ دلتون میخواد خواد سرمایهتون چه چجوری مدیریت کنین؟ برای مسافرتتون برای خوشگذارونیتون چقدر می هزینه کنید؟ برای بچهاتون چقدر؟ برای سرگرمیهاتون؟ می‌خواید چه اثری رو روی محیط دیگران بذارید؟ دقیقاً مثل دفعات قبل یه دقیقه وقت بذارید تا برای هر کدوم از مواردی که یادداشت کردید یه نقطه پایانه مشخص داشته باشید. حالا بریم سراغ مرحله سوم از اهداف سرگرمی و ماجراجویی. دوباره کاغذو بیارید و پنج دقیقه برای نوشتن همه موردهایی که دوست دارید بسازید یا بخرید وقت بذارید. مهمترین و ترین عامل سرگرمی و شادی برای تو چه کاریه؟ قصر داشته باشی، یه خونه لب ساحل، استادیوم، موسیقی، سینمای هنری یا سینمای خونگی هر جایی که میخوای بریو بنویس ماجرا جویی هایی که میخوای انجام بدی میخوای بازیگر بشی با شوتورا بین اهرام ثلاثه مثل مسابقه دو بدی و حریفتو شکست بدی تو فیجی میخوای قواسی کنی بذار بازم تخیلاتت پرواز کنه اینجا هر چیزی که میخوای به خودت هدیه بده هر چیزی که بنویسی درسته مال خودته هیچ اشتباهی هم توش نیست برای هر کدوم از اهدافت یه دقیقه وقت و زمان بذار و زمان رسیدن به اونو مشخص کن، زمان رسیدن به هدفت و بعدش اصلی ترین هدفتو توی این حوزه که برای یه سال در نظر گرفتی و انتخاب کن و براش همه ی دلایل مطمئن بدون کم و و توی یه پاراگراف تعیین کن. این اهداف میتونن مهمترین و پرانگیزه ترین اهداف تو باشن چون واقعا با اون میتونی اسم خودتو برای همیشه موندگار کنی با این اهداف میتونی میراثی از خودت به جا بذاری که همون تغییرات منحصر به فرد توی زندگیته حداقل پنج دقیقه وقت بذار و خوب فکر کن و بنویس که چطوری میخوای توی این زمینه فعالیت کنی میخوای برای بی ها خونه بسازی میخوای یه بچه رو به فرزندی قبول کنی میخوای برای نابیناها کتاب بخونی یا اینکه میخوای برای صلح جهانی فعالیت کنی میخوای کمک کنی که اقیانوز و دریاها تمیز بمونن میخوای تبعیض نژادی رو از بین ببری میخوای یه ماشین طراحی کنی که با آشغال کار میکنه یا دستگاهی طراحی کنی که باهاش بشه لنز گم شده یه نفر رو پیدا کرد من نمیدونم هرچی که میتونه تو این حوزه بهت انگیزه بده بگرد و پیداش کن و مثل قبل برای هر کدوم از اهداف یه زمان مشخص کن مهمترین هدفتو انتخاب کن و توی دو دقیقه یه پاراگراف براش بنویس که چرا میخوای حتما و مطمئنا تا یه سال دیگه به این هدفت برسی حالا که این کارو تموم کردیم باید چهار هدف اصلی بزرگ و مهم و برای یه سال آینده خودت داشته باشی که حتما تو رو به وجد میاره و تو رو به حیجان میندازه این اهداف باید اهداف منطقی و قابل دستیابی و توصیف باشن باید کمک کنن که به جلو حرکت کنی. اگه به هر چهار هدف توی یه سال برسی چه احساسی به دست میده میدونی من نمیتونم به حدی که نیازه روی این قضیه مهم تأکید کنم که برای هر کدوم از این اهداف چقدر باید دلایل محکمی داشته باشی دلایلی که به تو این درک رو بده که باید به هیچ وجه از اونها دست نکشی این هدفها باید دلایلی داشته باشن که چرا لازما و چرا لازمه که اونها رو تأمین کنی حالا میخوام یه تکلیف بت بدم تا بتونی این هدفها رو شرطی سازی کنی تا توی ذهنت واقعی و قابل دستیابی بشن و با همه قدرت تو رو در طول سال آینده به جلو ببرن. از الان به بعد تکلیف تو اینه. حداقل هر دو روز یه بار باید به این فکر کنی که به هر چهار هدف اصلی امسال رسیدی و تو توی شرایطی قرار بدی که انگار اونا رو داری. اون احساس شادی و نشاط و خوشحالی که توقع داری در نهایت بهش برسی و توی اون لحظه تجربه کنی و باید در آن واحد بتونی در خودت ایجاد کنی باید اون احساسو توی خودت پرورش بدی شکلگیری این احساسات عمیق در تو ایمان و اطمینانی به وجود میاره که میتونی خیلی راحت به خواستهات برسی اون وقته که میتونی دست به عمل بزنی میتونم بهت این اطمینانو بدم که این روش جواب میده چرا چون یه عمر روی خودم و زندگیم این کارو تجربه کردم. سالای پیش وقتی که هیچ آیندهی ای نداشتم و هیچی هم برای تغییر شرایط در اختیارم نبود، هدفهای خیلی بزرگ و غیرممکنی و برای خودم مجسم کردم. اونا رو انتخاب میکردم با جزئیات اونا رو تصویرسازی سازی میکردم و فکر میکردم که انگار در همون زمان بهشون رسیدم. ای که توی کاخ دلمارک دارم باید بگم که واقعا یه کاخ واقعیه که در سال 1925 ساخته شده ده هزار متر مربع زیر بنا داره تا قبل از این تو اون خونه آدمای موفق زندگی میکردن. یه سال و نیم بعد اون خونه تو اون خیابونو خریدم هیچ راهی برای انجام دادن کاری جز با شرطی کردن واضح و روشن خودم تو اون زمان بلد نبودم من خودمو توی یه خونه بزرگ تصور می که که به اقیانوسه. من اصلا این کاختی عمرم ندیده بودم و کلا یه بخش دیگه از کشور رو برای زندگی انتخاب کرده بودم مطمئن باش که این روش کار میکنه و جواب میده میخوام اعتماد به نفس کاملی توی این مورد داشته باشی و بدونی که این هدفها بهترین مربی و وسائل مورد نیاز رو برای تو جذب میکنن آدمایی رو سر راهت قرار میدن که تو رو راهنمایی نمایی کنن این امکانو به وجود میارن که هرچه سریعتر به نتیجه های مورد نظرت برسی به جای اینکه با روش های قدیمی آزمون و خطا این کارو انجام بدی این روش هدف گذاری خیلی برات زمان میخره گاهی اوقات ده ها سال و حتی قرنها پس حتی یه روزت تلف نکن این فرایند و همین امروز و همین الان شروع کن خب من اول این کتاب صوتی برای چالش تعریف کردم تو رو به چالش استفاده کردن از مهارت که توی این کتاب صوتی یاد میگیری دعوت کردم که از اونها استفاده کنی الان دوباره این چالش رو تکرار میکنم تو در طول این مسیر با این کتاب صوتی همراه بودی قدم به قدم اومدی و همکاری کردی الان دست خودتی که این مسیر رو به واقعیت تبدیل کنی ایده ها تکنیک ها و مهارت ها تا وقتی موثرا که از اونها استفاده کنی چقدر میتونی به تکنیکایی که یاد گرفتی عمل کنی جواب اینه که هیچ محدودیتی برای تو وجود نداره اگه واقعا دنبال تغییر دنیای خودتی واقعا میتونی کار رو با تکنیکهایی که یاد گرفتی انجام بدی الان زمان مال توه نوبت توه شانس بههت رو کرده تا زندگی خودتو رو روشن کنی و اونجوری که دوست داری اونو دوباره بسازی اینکه رؤیای واقعی خودتو به واقعیت تبدیل کنی و افکار روشن خودتو به حقیقت برسونی من تو رو به بیدار کردن حیولای درونت دعوت میکنم تا کشف کنی که زندگی میتونه چقدر زیبا لذتبخش غنی و, عشق، قنی و منظر به فرد باشه امیدوارم یه روز این فرصت رو داشته باشم که بتونم شخصا هات ملاقات کنم تا داستان موفقیت زندگیمو برات تعریف کنم تا اون موقع یادت باشه که با شور و شوق و علاقه زندگی